بسم الله الرحمن الرحیم مرز سلام ادب احترام و وقت بخیر من شما برادران و خواهران عزیز و گرامیم هم. همان که تو این سالن هم, هم از دان که سالن بغلی زارم و صدا و تصویر مار دارن خب ما تو چهار جلسه قبلی بازی به این صحبت کردیم که در پیشگویی های عهد عتیق وحد جدید آنچه که مسیحیان و یهودیان معتقدن ما خروج یعجوج و ماجوج رو داریم بحث کردیم راجع به اینکه یعجوج ماجوج چه کسانی هستند میتونن باشن روایت خودونو بررسی کردیم آیات قرآن رو بررسی کردیم چون در قرآن صراحتن اس برده شده عهده این رو بررسی کردیم و با دانش روز و جغرافی ها رو نمیدونم بیرفتیم دیدیم دیگه این هفته و این جلسه ی خورده میخوام بارد فضای بیشتر بارد فضای اعتقادیشون بشم یه سه نکات به نجوم خدمتون ارز میکنم خب عزقایی هم میکنی خود من سرمو خوردم حالا آروماروم احتمالا هنجرامون گرمشه شاید صدامون هم بالاوری خوره درسته بشه ببین راجع به اتفاقات نجومی قبلن هم عرض کردم خدمتون خب ما 156 آیت و قرآن داریم و میتونیم بگیم مسئله یه مسئله ساختگی و من است نه از غذا بسیار آیات علمی ما. علمی هم هستن یادم از توان جلسات دای ندبه یک جلسه شو فقط ما راجب سیاه چاله ها اینها صحبت کردیم راجب نسبیت صحبت کردیم و آیات و قرآن رو که یک انتباق عجیب غریبی با این ها دارن جوری که اصلا آدم نمیتونی این رو نبینه این نیست که به زور یه چیز رو با یه چیز جور کنی مثلا خودشه این آیاتی راجبه فلا اخسامو خون نسل جوار الکون این چطور شما میخواید به پدیده دیگه ای ربط بدید فعال خودش سیغه مبالغه است فعال خیلی خدا داره قسم میخوره به ستاره ستاره ستاره که خون نسته خناس یعنی دیده نمیشه چیزی که اثر دارد ادمو دیده نمیشه برای همین به شیاطیه میگن وسواس الخناس وسوسه میکنن اما اصلا شما نمیبینیدشون قابل رؤیت نیستن مطلقا یعنی اینکه که مثلا بگی تار می‌بینم، از دور می‌بینم، مثلا رزولوشنش پایینه اینا نیست یکه مطلقا دیده نمیشه ستاره که اصلا دیده نشین یعنی چی آخه چه معنی داره واین سوال بوده برای یک زمانی برای مسلمانان برای مخاطبان قرآن غیر مسلمانان در قسم اصلا ستاره وجهش تو دیده شدنشه اون آسمان همهش تاریخه یه نقاط روشنی داره به اون داره میگه ستاره میگه قسم به ستاره که اصلا دیده نمیشه دیده شدن عادی هم نه خون نس الجوار تازه حرکت هم میکنه بقیه ستاره هم بقیه ستار حرکت میکنه الکون نس این هم کنس میاد عرب ها به جاربرگی میگه مکنسه همه چی میبله المکنس کهربایی، المکنس الکهربایی جاروی برقی مثلا این کنس همه چیز رو هم میبله ستارهی که اصلا دیده نشه حرکت کنه همین جزم ببله خب جز سیاه چاله چیه ما کاملا برای این تعریف داریم خب با خودم گفتم ای کشت و عربی به جای سیاه چاله میگفتن کنس یا میگفتن کنس اصلا همین اسم رو این یعنی همین رو بارت قرآنی رو بیش اما ما راجع به این وجه نمیخوایم صحبت کنیم روز راجع به اون وجهی که اونا معتقدن من نیمدم ایمده مباحث علمی نجوم میگم نه همه میدونم اساتید نجوم فراوانه را ما شال خود شما میتونیم با یه جستجوی سادهی مقالاتشو پیدا کنید بخونید کتاباشو بخونید بلکه اتفاقاتی که با نجوم مرتبط میشوند واجم خورده صحبت کن و الان هم شما دیدید چقدر این فضای آسترولوژی پررنگ شد شده تو ها هر کسی میبینی من قم رفت بودم دوسته روحانی آقا نظر در مورد فلان آدم چیه چیه مثلا آره یک کسی بود که مثلا از این پیش بینی ها میکرد کرد واقعا دیگه اون دیگه, دیگه اسمش رو میذارن خودشون گم پیشگویی اینا چیه اولا به این پدیده‌های نجومی که اثر بر روی زمین دارن ما در روایت اشارات داریم یکیش مثلا پدیده قمر در اقرب قمر در اقرب یعنی قرار گرفتن ماه در صورت فلکی اقرب یا این یعنی مکانی یا برج اقرب یعنی زمانی فقه ها تو معنای خوب گوش کنید اینا بعد مقدمش جا بفته فقه تو معنای قمر در اقرب اختلاف نظر دارن از نظر فقه های مثل شهید سانی صاحب جواهر رحمت خدا بر اونها مراد از قمر در اقرب قرار گرفتن ماه در برج اقربه نه صورت و منازل منتظبون این الان به شما میگه مثلا متولده همه تون مثلا متولد چه ماهی هستید به ما یه ماه داریم یه برج درسته؟ ماه قمری برج شمسیه درسته؟ مبنای ماه اونم دو هزار سال پیشه یعنی فروردینی رو حمل میدونه اردی بشتی ثور میدونه جوزا همینطور میاد جلو خب میگه متوارد چه ماهه یه میزان یعنی ترازو متولد چه ماهه آقا سمبل مثلا آبریز دلو ها بهمن مثلا این یعنی چی یعنی اینکه اسم گذاشته بودن بله زمانی که در این صورت فلکی پس اختیار نظر شد اینکه اون تایم مد نظر تو یا نه واقعا ما الان تو این صورت فلکی یا نه به خاطر اینکه اینا آرام آرام از هم فاصله میگیرن این اپسیلون های زمانی جمع میشن آرام آرام از از عوض میشه مثلا حالا قبلا براتون گفتم یه زمان خورشید فروردین تو صورت فلکی حمل طلوع می کرده خب الان تو وحج طلوع میکنه الان وقتی شما دارید میگید حمل منظورتون فروردین زمانیه یا مکان خورشید توی صورت کدام صورت فلکیست؟ که الان دیگه تو اونجا نیستش توهود فقها هم تو همین مسئله سر ما اختلاف کردن که قمر در چی قرار میگیره صاحب عربه گفته هر دو تاشه فقه های شیه اجرای سیغه ازدواج سفر کردن تو قمر در اقرب با اتقا به روایتی از امام صادق مکروه دونستن شامل جشن ازدواج نمیشه ها ساری شدن و جاری شدن خود سیغه ازدواج. خوب حتی محقق کرکی از فقه های بزرگ و ازمای شیعه در دوره صفویه حتی سفر حج رو هم مجروح دونست خیلی اختراف نظر. به وقت از اون صادق جلهش هش استفاده پنج کافی اینه انا عبی عبدالله علیه السلام قاله من سافره، هلچه سفر کنه، او تزوجه، یا زواج رو کنه. وَالْقَمَرَ فل الْاقْرَبِ در حالی که قمر در اقرب باشد. لم يَرَ الْحُسْنَوَ خوبی نخواهد دید. علام تبا من دارم از نظرت علمامون اول میگم، بعد بارده بحث میشه. علام تبا تبایی، یعن نظر عقلی، دلیلی بر اثبات، یا انکار بدیوم یا خوشیوم بودن روز یا زمان خاصی وجود نداره میمونه نمیدونیم چیز خاصی در دست روش روایت هم که وجود داره رویشو میگه مرسل مرفوع فلز و ضعیف و یا حمله بر تقییه کرده میگه معصوم تقییه کردیم خب اما اصل ارتباطاته حوادث زمینی با اوضاع آ... ستاره آسمون رو هم انکار نکرده گفته من نفیان و اثباتاً چه چیز عقلی داریم اینا فیلسوف بودن عقل‌گرا بودن نگاشون چه منطقی داره این فلزوم نسبیاً اثباتاً بعد میگم مراد از این ممکن است اوضاع احوال ستارگان زمین ساز یا سری اتفاقات حوادث باشن نه علت اینگار احتمال وقوع یک سری مسئله رو بیشتر کنه، فضا مساعد باشد برای یک اتفاقاتی میگه احتمال اینکه اینجا دانه روشت کند بیشتر از تا 5 کلومه دون اینجا نور و گرما و آب و چیه و چه مثلا فرام یه همچین چیز از نظر آنیت الله جوادی آمولی مفسر فیلسوف ایشون هم میگه که نحص بودن ذاتی یک روزو خواستی رو چه؟ اما این روایاتی که من کردن از عقد ازدواج یا مسافرت تو قمر در اقرب و برحق دونستم و مرات کنیم باید چون حوادث جهان تو زندگی ما محسل اللامه دیت تو حلیت المتقین که کتاب لایفستایل اون موقع بوده چقدر امروز نداریم آداب سوار بر مرکب شدن، آداب بخش سرویس بهداشتی رفتن، آداب وارد جای شدن، از جا خارج شدن، آداب نون خوردن، غذا خوردن، با سفره نشستن، همه چیز آورده برای مردم یک کتاب آورده نوشته، حلیه المتقیین برای متقینه من یادم مثلا تو خونمون که داشتیم سند پنجم ابتدایی راهنمایی اینا بودن، می‌رفتیم باز می‌کردن می‌خوندن. اونو بعضی این کات عربیشم نمیفهمم تا میپرسم از حضرت اما قدیمات خونه ها بود الان نداریم آدم رو سوار شدن چیه چی میگم بعد انتظار دارید مردم رفتار درست داشته باشن دیگه الان کجا خرگیر میدین سوار خر بشی مثلا سوار اسب بشی مثلا ادم ماشین سوار شدن چیه آین این در ماشین چجوری ببندیم دین و... دینی که تا ببخش تو دستشویی رفتن بهت میگه کودون پاتوچالو تربیت کرده نه آگاب تربیت برای امروز حرفی نداره آداب استفاده کردن از این شبکه اجتماعی چیه؟ من یه بار توی این جلسات معماری عرض کردم برای ویژه معماران بود. گفتم شما مذهبی رو رو, رو کره زمین پیدا نمیکنیم مثل تشهاییا که بخواد جان انسان سالم باشه. پروتکلایی که داره هیچ جایی نمی‌شه. سواری هواپیما میشد سخت سختگیران ترین پروتکل در داره 30 ساله خلبان داره میپره حق نداره به حافظش اتکا کنه دوباره باید چک داشته باشه باید چک لیست کنیم هی این یکی میخونه که خلبان میگه چک چک شد چک شد چک شد, شد. تیک میزنن اون تون تون باید این رو انجام بده آقا اونم گوشیاتونو بردارید پشتی ها صاف بکنید روکش صندلی بدید بالا اون که صورا برمی‌شد خیلی سخت گیرم. چون توی لندینگ و ٹیک آف مثلا خیلی از حوادثه ها مون کمر بسته باشه و حادثه ها اون کن رخ بده خب من به شما میگم زندگی روزمره ما این روایتی داریم به مراتب است یا آقا دلیلی که حالا د... تو این علل و شرایع آوردن کنیم یعنی دلیلی که میگن کون پاتوسو زودتر بذاری مثلا موقع دست دفتن رفتن و, و همون لحظه سکته کرده افتاد مردی یا حالا دو بمیری حالا بیهوش شد یعنی اختیار خود نشه پیکرت بدنت افتاد بیرون مردم ببیننت تو نباشی این که حالا مثلا یک نفر میره همما اونجا به خاطر سرامیک و اینجور چیزا که س... کفصوره نمینام این مواد شوینده که اصلا لغزنده میکنه خب وقتی اون مستحب مکشود اینجا دیگه این اصلا یعنی چی؟ به مراتب خطر این بیشتره آیا اومدیم وارد این مسائل بشیم بعد مردم رها میکنیم مردم خودشون آزمون خطا یا فیلمای سینمایی یا هر چیزی که آداب و اون وسیله رو از خارجه گرفتن یا مترو خارجه دوستان همون رو یاد میام چیکار چج زبرش پروتوکولاش چیه عمومی ابزارالات و تکنولوژی هم چون از اون طرف آمده متناسب با لایف استایل اوناست از پنجره و در و از این اینا موقعی که درها رو درست کردن قد یه اروپایی رو مبنا قرار دادن اروپا رو مبنا قرار دادن که آفتاب نداره برای این پنجره میذارن که آفتاب بگیره بعد ما اینقدر نور داریم پنجره میزنیم بعد با پرده میپوشید میشین نورا تو نیاد اما میگم اینجا این نکته مهم بودا چون مثلا, مثلا اون موقع اشاره کردن که در زمان قمر در اقرب آمیزش مکروهه مسافرت تو قمر در اقرب راحت داره فهمی روایت ممساده هج، هجامه روز چهارشنبه در صورتی که قمر در اقرب باشه ماه در وجه باشه مکروهه همین حالا دیگه کدوم کتاب چی بگذریم دیگه حالا خودتون جستجو کنه فراوان. تو سایت مراجع امروزی امروزیمون، سایت جوادی گفته من سایت جامل مسائل باباصره دفتر علوم مکاره هم که می حالا خلا اکبر از بین بردن این شومی که حالا گفته میشه در درقبر در اقرب در وجود داره از دعا و صدقه اون چیزا استفاده کنید. اینم و برای تشخیص این زمانش هم الان تقویمای نجومی هست. چه مورد اعتمادون شده که مورد اعتمادم برید استفاده. خب حالا نکشتش چیه؟ آیا خود من رعایت میکنم؟ بله چون بتونم رعایت کنم. اما یه تصمات خیلی مهم میخوای بگیری خب یه صدقه آدمی در انجام میده حسن مهم میرون کار واجبیه آب یه نفر در وسطه داره دو چه کش داره برگشت بخوره یکی نمیرم میشه مثل شما وایست حالا این هم دارم برم. من خاطرم از یه بار یک جلسه بود یکی از جایگوش قرار بود یک م... کسی رو جابجا جا کنن بگذارن توی معاونتی و کار یک جای از کشور گره خورده بود گفتم چی شد رفتی پیش فلانی آره نمیدونم چی... چی گفت گفت تا ما سفر تمون انجام نمیدید یک ماه کار عقب انداخت حالتون یه ماه چندین اتفاق میتونست بفته متاسفانه اینجا پس زرر نداره لحاظ کنه دو روز, دو روز و نیم در هر ما بگرده میخواب مثلا سیغه ازدواج بخونیم برای دو روز نیم قبل ترشی خود یه روز قبل ترشی خود یه روز بعد ترشی خود که نداره که غیر از اون ما کلی روایات داریم که مثلا میگه آقا میخواید نزدیکی کنی برای تشکیل نطفه بچه میخواد به دنیا بیاد خب اصلا میبینید که اصلا میگن که آها تو انتهای ماه نباشی مثلا یه نفر با خودش میگه آقا سی روز روزه گرفتم چقدر خوبه مثلا عبادت کردم عید فتر چقدر زمان خوبیه برید ببینید تو این تقویم هایی که وجود داره میشه آقا فرزندت کسی رو شر میشه آقا واقعا این ارتباطات هست نیست اینا چیه عرض کردم ما دامی که علمش رو یقینی نداریم نمیتونی غذا کنیم کنی، درسته؟ اما خب روایتی داری، نادیده هم نمیشه گرفت. همین فوقه های ما حرام ندونستن ببینید، افت مکش. این همه ما عمل داریم انجام میدیم که میگیم احتیاط واجب، احتیاط واجب، احتیاط واجب. احتیاط واجب احتیاط میکنیم دیگه؟ میگیم آقا قبل از دو درصد، 5 درصد، ده درصد، یه درصد هزار من کسی نباشم که جلو خوشم خدای ایستاده باشم ببینم همینجا پس راجب نجوم این نکاتو داریم نه بحث خود نجوم علمی که گفتم میذارم کار... میذارم کاری ندارم هرچند بهش قطعا اشارات خواهم داشت راجب این تاثیراتی که اینها داره و این ربطش به فضای جهان امروز اگر نه من چیکار دارم با اینا من سالهاست مطالعه میکنم اصلا نمیتونی شما پژوهی بکنی با این بخش آشنا نباشی نمیتونی شما راجب کابالا تحقیق کنید با این بخش آشنا نباشی جز دروس و علوم پیشنیازته یعنی من باید میرفتم یاد می‌گرفتم. این علومو نه نجوم علمیر و تا حدودی که بفهمی کجا دارن چرت و پرت میگن کجا دارن حرف حساب میزنن و بتونی رفتارهای اینا رو الگوش رو پیدا کنی برای آینده که مثالهای رو براتون عرض خواهم کرد تو ادیان انحراف یافته بگیم تو دین حقیقی اینا نیست و تو فرقه ظالم متاسفانه به اینا خیلی استناد میکنه خیلی بعضن اساس کارشونه بعضن اساس شلون صراغ این چادو جنبل و دعا و فلان چیزا میرن که اصلا اون سرش نا پیدا خب اون اعتقاد منحرفه تردیدی نیست اعتقاد اون تکفیریه که خودشون منفجر میکنه منحرفه اما اون دیوانگی به تو مرسه تو رگشته این مهمه این مهمه خب اینها معتقد بودن همون که جلسه قبل آخراش بهتون گفتم این لایه‌های مختلف یعوج و ماجوج بردوش گفتم آخریش هم که اینا چیه شیاطین جنه یعوج اونی که آتیش میده ماجوج اونی که آتیش میگیره یعنی شایوتین جنوانس میگفتن به جون آدما، ها. آدمایی که رفتارشون تو آخر زمان میگه جوری میشه که آنورمال میشن. رفتار غیر طبیعی ازشون سر میزنه. اصطلاحا ما مجنون شده طرف دیوانه شده ها؟ میگه رفتاری که بعدا شاید خودش هم میگه چه کاری بود کردم؟ چه حرفی زدم؟ میگه اینو بی زیاد میشه. خب گفتم اینا به هفتاد و دو تا شیطان به عنوان متاسفانه گرداننده کائنات اعتقاد داشت. تا قبل از اسلام تصور عمومی اینا این بود که جنیان و ملائک یه جنس یعنی همشون ملک هم شیطان هم یکی از ملائکه برای همین تو ادبیات سینمایی یا غیر سینمایی غربی ها که متأثر از مسیحیت و یهودیت لوسیفه رو برادر گابریل جبریل معرفی از ازازیل شیطان رو برادرشون با هم درگیری دارن و کردم خدمتون این بوده که یه سری از ملاعک طرف خدا رو گرفتن یه سری از ملاعک اومدن طرف انسان رو گرفتن تو این دعوا دعوا شد بین انسان و خدا تو همون لحظه آفرینش و سر نخوردن اون سیبه که این سیبه شد نماد گفتم تورات بکنم اصلا از رو براتون خوندم این جاش. خب این 72 تا رو پنج روز هر کدوم بر دنیا میگفتن حاکمه 72 تا 5 تا سی پنج تا،, پنج دو تا, تا سی و تا پنج دوتام تا سی و روز پنج روز آخر ایام الها بود ایام روزهای ها حرف پنجم ابجد اب عب جد این چهار تا و می گفتن روز پنجگانه در تقویم هایی که متأثر از خورشید بود شمسی بود مثل ما ایرانی ها مثل مردم بین النهرین مثل مصری ها خورشید در اول و آخر می زد همه چی بر مبنای خورشید تنظیم می شد اروپا تمدنی نداشته خیلی محل توجه بخوایی بگیم خودش متاثر از جنوبش هم که جای خوبش بود و در نزدیک به ما بوده متاثر از ماست همین جشن کریسمس که دارن میگیرن زاده شدن خدای خورشیده همین ایامش هم هستیم درخت کاج نماد زنده ماندن در زمستان نماد حیات ادامه داره ازش خورشیدای کچولو آبیزون میکنن اصلا حضرت عیسی علیه السلام در ماه به دنیا نیومده و با همین محاسبات نجومی اثبات میکنیم میشون خورداد و اون طرف ها بعد دقیق وقت بزن روزش رو چون هست در اننجین ستاره بهط دیده شده نجوم مونه میزنه ثانیاش هم مشخصه چه برسه به روز و ماه و سالش این ستا ایرانی که بلند میشن از ایران میرن از کجا میزن کجا باید برن چ خود نتون می ستاره تو آسموم دیگه خب باشه کجا بریم حالا نه شعبسنگ بوده افتاده لام سب الان نمیشه شعبسنگ بفتد زمین رو پیداش کرد از ایران فهمیدن شعبسنگه تو فلسطین افتاده و چیز بگید بگنجه یه شدنی باشه من روزی یکی از کلیساها ها رفته بودم در اسوان نقاشاتش برای من توضیح میداد به همینجه که رسید من شروع کردم روزی بین رو <تصفح> توریست ها که اومده بودم مردم جمع شدن و بعد. یک کم بغل و استاد گفت این اینو بگو راجع به ائدام نظر میدهین خانمه بود ناجرا بعد به اون خانم محترمی داشت توضیح میداد خب یه لحظه گفتم ببین ناراحت نشو الا ما مسلمان ها ما شیها و سنی ها اینکه روز تولد پیامبر اون کی بوده اختلاف نظر داریم یکی میگه 12 ربیع الاول یکی میگه 17 ربیع الاول آقا این نه پیامبر ما رو میاره پایین نه بالا این بحث علمیه اصرار بر یک چیز نداشته باشید فردا علم با اون مخالفت کرد یعنی, در... یعنی یافته قطعی بشری با اون مخالفت کرد کل چیزا بر زیر سوال مسیحیت متاثر از به این فرهنگ خوشیدی حالا یه دین جدید اومده دینار شپوند قالب خودش نه با من را بیای همین که هست و اما این پنج روز اله تو این بهایی ها میگه دلایل انه اصلا همینه حالا این فرقه زالب دیوی سال اینا به خاطر این که باب میگفت بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه 19 در کردن عدد مقدسشون بعد اومدن گفتن ماهامو 19 روزه هست تعداد روزهای هر ماه 19 روز سال چند تا ماه داره 19 تا 19 زبدر 19 میشه 361 می گفتن تو سال کبیسم اینم پنج روز پس اینم ایام ها ما الان رسمان این عبارت ایامل ها مال به هایی مشخص قشم اشخصت کجا گرفت اما پنج روز اصلی چی بود اینا می گفتن خب خورشید در فروردین به دنیا میاد خب در تابستون به بلوغ خودش میرسه. فردن؟ نه فروردین به دنیا اول زمستون میگن نطفه‌اش بسته میشه. اول روز اول دی. از اول دی درست زاد روزه خو. اما اونی که ظهور و بروز داره هنوز سرماست. میخواه بری تو زمستون، روزا داره بلند میشه، اما شما زمستون رو چونه میشه. اون اثر و نتیجه روی زمین که رویش گیاهان براتون مهم بود. با پاییز آرام آرام فرتوت و مرگ شروع میشه میمیره پادشاه هر جایی برای که بتونه دوست داشته باشه بعد خودشو منتصب میکرد به خورشید توی ایران هور خور، اهورا آسورا همین اسمه میترا میتراییز مهر تی ایچ اگه اونو بخونیم مصر شهر هولی خ... یعنی مقدس درسته به جای ه گفتم این ه و تبدیل کنید به هم دا. میشه چی سول یعنی خورشید درسته همین این واچیای با... خورشید رو چی بهش میگن سولار سل پولیس شهر خورشید بعل بک بعل خدای خورشید همه جا همینه خب پادشا هم برای از اون تقدس می گرفت از اون اعتبار می گرفت مصر یه نمونه واضح و بارزشه که خوبه جالبه چون ها به تاریخش علاقه دارن زیر بیشتر بهش پرداختن اینو بدونید را و ان ربکوم العالم خدای خورشید هراس یاد چون سخن روزفرماسندیم می کردم همین رو توضیح دادم دوازده گانه ماههاش هم میشدن بروژ می میشدن می یارانش خدا هم به طرز عجیبی میخواست حال اینا رو بگیره مثلا واقعا خدا اینجوری دیگه که سنت ها الهی که از همون جایی که ادعا میکنی میزندت فرون بچه میکش یه بچه رو نگه داشت اون شد موسا قاتل خودش از کار رو زیاد میکن تعداد حواریون در مسیحیت اثبات در یهودیت امامان در شیعه خلفای عشر در اهل سنت این دوازده هم هست خب حالا چی میشد؟ بعد میگفتن خدای خورشید مرده شاه که نمیشد کشت بعد دوباره میخواد بدونیم اون پنج روز آخر برمیداشتن شاه ها میگفتن برو خوند، کاهنا تشریف هم منزل یه نفره که میخواستن اعدامش بکنن حکمش اعدام بود تو زندان میکشتنش بیرون میگفتن پنج روزش قهال کن شاه باش دو سه تا خط قرمز داشت سراغ خاندشان نواد میرفت بقیه چیزا آزاد بود دیگه این هم دیگه یه آدم که میخواستن اعدامش کنه میخواسته دیگه آخرین سافت کاری را میداختن پنج روزش هم که تمام شد میکشتنش بعد شاه دوباره به عریقه خودش برمیگشت مینشست میگفتن چی؟ شاه زنده شد بازگشت خدای خورشید این تقریبا در تمام جغرافیایی که خورشی پرستی درش عقبه داشته وجود داره در ایران خودمون هم ادبیاتش مونده تا زمان صفوی و اوایل قاجار هم بود که یه بدبختی رو برمشتن برعکس رو خرمین شوندن تو شرمی چرخوندن این نفعه عذیت میکند مردم ها دیگه مردم ها اینو میزدنش مونده بوده اما این معمولا ببینید آداب کفرامیز این وقتی ریشه دار میشه بین مردم به این سادگی ب... از بین نمیره. م... مشغول مرور زمان میشه تا آدمی که جذاب جزبی... مثلا چقدر جذاب همچه برای مردم که یهوی قوانین شکسته بشه شهر هرت بشه براشون جالب پنجک پنجه دزدیده پنجه طرفته پنجه برداشته شده پنجه مقدس پنجی اندرگاه اندرجا پنجه نیکو پنجه گاه گاهانی پیتک به و هیگک تار پنجه بعدن آوردن عربیش کردن معربش کردن خمسه مسترقه اسامی مختلف این 5 روز آخر سال حالا در ایران در همین حد بوده که بازی باشه مثل چهارشنبه سوری و مثلا اینا اما در بین النهر اینجوری نبود متاسفانه اون پنج روز فاجعه بار بود اینا مراسم اورگی برگزار می‌کردن عزم خام زنوی دست جمعی برگزار می‌کردن نطفه هایی که بسته می شد نه ماه بعد به دنیا می برای همین این نه عدد مقدس اینا شد. و کلی آدم کشته می شدن. اصلا یک به معنی، برای اینکه شناختنشه صورتاشون رو می بستن. همین بالماسکه بازمانده از اونه. جشن بالماسکه که می گیرن، ریشش از اون روز. حافظ قشنگ میگه می گه، سخن در پرده می گویم گل از اونچه بیرون آی؟ که بیش از پنج روزی نیست حکم میره نوروزی میگه خوشحال نباش تا از اون شاه پنج روزه هایی میره نوروزی هستی پنج روز بیشتر جواب نمیده فاطعت خونده از بعدش بعد کشته بشه یا در تقویم این هم بود یعنی ما الان چجور هفته داریم اونا پنجه داشتن بین و اینجوری بودن ایرانی هم بودن ایرانی ها چل روز داشتن نه ماه چهل روزه برای همین چله چله میگفتن الان هم که چله کوچیکه چله بزرگه شب چله یعنی چهله این شب یلده کلمش فارسی نیست یلدا واژه آرامی یعنی به دنیا آمدن اصلا در زبان ابری و آرامی الان به دختر میگن یلده یلد پسر یلدا، دختر اشاره به به دنیا آمدن یا به دنیا آمدن خدای خورشید یا به دنیا آمدن حضرت عیسی علیه السلام میدونید ما قبل از اسلام عملا این اواخ در زمان خسرو پرویز ساسانیان عملا دو تا دین رسمی در کشور بود یکیشم مسیحیت همسران و خسرو پرویز مسیحیان هستن وام گرفته شده احتمالاً از اونها باشه بعد کار علمی صورت بگیره که متأسفانه کشور ما خیلی جدی گرفته نمیشه خب در مصر و بین نهرین اونا بیشتر رو همین 72 دو دو بوده الانم یهودیتی که از کهانت مصر الگو گرفته یعنی کابالیستا عدد 72 دو دو عدد چیشونه؟ قدرته یعنی تمام این خدایان بهتر بگیم بهتر نه درسته بگیم شیاطین رو به دست آوردی با تو همراه هم. تو اعتدال ربیعی یعنی اعتدال بهاری که 21 مارسه اگه دقت کنید فلک هرگز دقیقا جای قبلش قرار نمیگیره پنجاه ثانیه عقب افتادگی داره اینا که جمع بشه تو یک دوره هفتاد و دو ساله به یه درجه میرسه یعنی جالب این هفتاد به یه درجه میرسی 360 درجه دیگه که 360 تقسیم بره 72 پنج یک درجه 60 دقیقه 3600 ثانیه 72 زب داره و تو 2160 سال به سی درجه میرسه سی درجه رسما یک برج آسمان جابجا شده خوشی تو این بروژ توی این جک و جنابرایی برای شما میکشه هر کدام اسمه یه حیوان یه چیز رو گذاشتن جابجا میشه هر 2160 و و سال یک دو جا بزن. اینه که مثلا عرض کردم خورشید دلیلش اینه خورشید الان در صورت فلکی حوت سو پروردین طلوع میکنه 2000 سال پیش 2160 دقیق تر بگی جا به جا شده هار و مارم بعد اندازین صورت‌های فلکی هم چون فرق میکنه کوچیک تر بزرگ تر دارن این میونگینشه خب میونگینشه چه اتفاقی میفته توی صورت فلکی حمل بوده دقیقاً نمبینی گوسپند میکشتن 4000 سال پیش بین 3000 تا 4000 سال پیش گاوه ببینید حضرت موسی دستور میده گاو قربانی کنن یعنی می‌خواسته مقابله کنه با گاوپرستی اینا مقابله کنن با گوسوندپرستی اینا قبل ترش که دیگه 6000 سال پیش میشه یعنی قبل سومر اول و اینا صورت فلکی جوزا طلوع می‌کرد خب که دیگه اصلا چیزی ثبت نشده ازش اصلا خیلی قدیمه 70 فرهنگ ایرانی باستانی ما هم غیری رنگ مثل تعداد ستون های کاخاپادان ها در تخت جمشید در شوش 72 عدد بوده کمربندی که زر ها به کمرشون رو میبندن بهش میگن کستی این کشتیگیر گیر یعنی همین یعنی اون کمر رو میگیره اسم این کمره این کشتی ما من کشتی با چوخه آره تو این هم ای هست که دیگه توضیح بدم بعضی ها نمیذاشتنین کستیشون رو کسی بگیره آره یه مثلا وسیله تیزی میذاشتن دستش بگیره برداره این کار نامردی بود دیگه آره. همی بس <تصفح> بعد شال کمرشون 72 تا نخ داشت به نشوندنده که 72 وظیفه فرد مکلفه زرتوشتیه که 14 15 سالگی به تکلیف میرسن نه بعد انجام میدن. خلاص میخوام بگم این عدد تقدس پیدا کرد در ادیان مختلف. چرا شهادت هم 72 تا نیستم دو دو بیشتر 150 اونم چند خوند. این 72 جا افتاده. مثل یه ظرفیه که یه چیز بیرونش باشه میذارن اونجا. مثل طبقاتی که تو این وسط نمیتونی بذاری یا اینجا بذاری یا اینجا. این اعداد رو ذهن مردم فرهنگ مردم پذیرفته. نه حسن داره الزامن نه قفو داره الان مثلا آسی شما سوار هواپیما میشید باور کنه هواپیما خارجی اینا که دیگه ما درسته میکنم یه خرافاتی هم و فلان اینجور چیزا نه با... ردیف سیزده نداره هواپیما دوازده میپره چهارده من روز پرسیم بودم چرا این کار کردن میگفت نمیخرن مسافره خارجی ببینم بیریجشون افته رو تو ردیف سیزده هم نه این نه است بلا سرمون میاد فلا همشون حالا سیزده نه استه؟ نه خیلی امیر علمانی سیزده هر عجب بدون روز از این بهتر برای همین علامه تبا تبایی درست میفهمون چه دلیلی داره که مثلا بگید هسته, هسته؟, هسته؟ نمیشون گفت یه داده صرفا همه در تقدس برخی از تکرارها بر برمیشون چل بار اینو چله بگیرید نمیدونم مثلا. چیز دیگه است؟ چیز دیگه بگی این منفور من رو بزنیم کنم. حالا نکته دیگه که باید خدمت کنم تا وارد جدیدر رو بحث بشیم این که حروف تو زبان ابری 22 است. حروف ابری آلف، بت، گیمل، دالت آلف، آلف، بت، ب، گیمل، جیمل جیم، دالت، دال ابجت پس ابجت حوز هوتی قرشت مال قدیمییه مال اعراب نیست بکنید از قبل بوده هی واف زین حوز چت تدیوت هوتی کاف لمد ممنون کلمن سمخ عین په تصدی سعفز و قرشت کف رش شین تاو بعض شما شین شینو ما هم میگیم مثلا این اینو داریم حروف ابری یعنی از یک شروع میشه الف تا میرسه به تای قرشت ارزش عددیش چهار سده شد ابجد بلایت حساب بکنی دیگه شونجا همه حساب میکنم مثلا ابجد علی میشه صد و ده این چنده, لام چند یه چند جمع میزنن میگن میشه صد خب یا مثلا خدمت شما عرض بکنم نمک هم میشه صد و ده ایرانیا برن که اسم امیرالمومن احترام داشته گفتن زشت ما به اون قسم بخوریم هم ابجدشو فقط نمج قسم می خوردن برای همین اینا خاصی فکر نکنید مثلا داره در یهودی ها این خیلی پررنگه آقا خیلی پررنگ اسامی که هم ابجد باشند اینها یک پارچه و هم مفهوم سنجیده میشه یه خانمی یه زمان که لسه مهدویتی را انداخته بود دستگیر شد باش برخورد شد من یه زمانی مثلا اون موقع با یکی از این کسایی که با این برخورد کرده و صحبتم کردم مخشه صحبتشو بر من گذاشت مثلا کربلا و ربنا رو میگفت ابجدش یکیه چون ابجدش یکیه پس ببین در کربلا ربنا وان سر. ببین ابجد درست هست. ما روایت هم داریم که بهش اشاره میکنه. داریم روایت مثلا امام باقر حروف منقطع بر اساس محاسبه کرده. اما نه اینجوری دیگه شما بگردین. بعد گفتم خب بهش میگفتی خب انبرم ربنار جابجا کنه بوش میشه انبر. درسته؟ اون هم ابجدش با صابونه یکی دیگه فرق نمیکنه جا جایی تو جمع که تغییر تاثیر بجا نمیکنه. خب راه بالا با امبور چیه مثلا؟ نه نه نه عربی باید با شفر گفتم ببین برن خودی چیزی شنیده نمیدونه اما این ریشه در اعتقادات یهود داره ریشه در اعتقادات یهود داره تو تقویم عبری که از اینا مبدعشون تولد از آدم میدونن پنجزار و, و چقدر این ابجد رو که جمع بزنی یعنی 1495 میشه این رو جمع بزنی دیگه اومدن از ابتدا حساب کرده، محادن شد با 1234-1235 میلادی میرید میبینید یه اتفاقات عجیبی افتاده یعنی ببین او اینجا نکته او <تص> معتقده به اینا چون معتقده بر مبنا اینا یه کارایی انجام این قائل بر این بوده یک دوره الفه ابجد تا تای قرشت کامل شده حمله مغل به شاهیان در ادامه میشه چی؟ سقوط زرزمینه اسلامی مغلا آمدن دیگه رفتن دیگه که اتفاقات خاصی افتاده تغییرات در ساختارهای سیاسی اروپا تعلیف کتابهای خیلی مهم در علوم دینی یهود تا همین سوال ها اتفاق گفت خب خیلی مهمه ظرف اندیشه یک گروهی چیست این تا اینجا یه روات از امیر المومن بخونم، این بخش تمام هنگامی که امیر المومن علیه, علیه السلام آزم رفتن به سمت خبارج بود مردی از اصحابش و اظهار داشت که ای امیر مومنان از طریق علم نجوم دریافتم که اگر در این ساعت حرکت کنی آن دارم که به مراد خود پیروز نگردی نمیرسی من نجوم دارم نگاه میکنم درش اتفاقات دارم میونم امام علیه السلام فرمود تو گمان میبری از لحظه آگاهی میدهی که هر کس در آن لحظه حرکت کند بدی از وی برطرف میشود و از لحظه میترسانی که هر که در آن لحظه به حرکت بپردازد شر و زیان او را احاطه میکند پس هر کس این ادعا را راست پندارد گوش شما که تو این کانالا. هر هرکس این ادعا را راست پندارن به تحقیق آن را دروغ پنداشته و خود را در یاری خواستن از خدا در رسیدن به آنچه دوست دارد و جلوگیری از آنچه زشت میداند بینیاز دانسته و تو در این گفته خود از کسی که به دستور تو عمل میکند تو و خود کسی که تو دستور میکند میخواهی که تو را به ستایت نپروردگارش را زیرا تو گمانت این است که تو او را به لحظه‌ای هدایت کردی که در آن سود به تو رسیده و از زیان ایمن گردیده است میهمو امیرالمومنین رو به مردم کرد و فرمود ای مردم از فرا گرفتن این این دانش نجوم نه آقا علم نجوم چه سرجویی جز آن چه به وسیله آن در خشکی و دریا راهیابی می شود. یه بخش علمیش به درد مخوره و چهشکالی دار. آمیش چه محاسبه کنی، مثلا بررسی کنی یه سایورا که داره نزدیک می یه جرم آسمان در زمین پیدا می‌کنه، زمین می‌خواد دری را قب بیرون جو زمین با مشک مثلاً تیک تیکش کنی، چهشکالی؟ می‌لرم خوبه، سوابام داره بر هزار باشی، پس راستی این علم، انسان را به کهانت می‌کشاند. و منجم همچون اگه منجم این شد همچون کاهن است و کاهن همانند جادوگر و جادوگر چون کافر و کافر در آتش دوزخ قرار دارد آنگاه همیر بس ها به و اصحاب خود فرمود به نام خدا حرکت کن اینه آقا من خودم این بخش هایی که این رو ببین مثل محاسباتش چجوریه فلان و هم بره هیچ وقت نرفتم نه که بترسم نه که بترسم یه،, یه, یه خوفه یه چیزی دیگه داشتم نه این که مثلا اقا جنداره لولو داره <تصفح> اینا نه ترس از شرک چون شرک تشخیصش از مرچه سیاه تو شب تاریر و سنگ سیاه سختره من با سراغ این چیزو هر هرچند شاید یه سری توجیهاتی هم داشتم که اقا برم مثلا یاد بیرم میرم این جهودا چی کار میکنه من کارم چیکار کار میکنه به چی اعتقاد داره مثلا کدوم جن روز نوازه به کدوم شد یه هراجی که دور به اعتقادی هم ندارم معتقدم بودم برنامه زیاد بکنه تنظیم کنه اگر مثلا حالا مثلا مثلا قمر قمردار قربو، حالا معنی هم نداشته دو روز قبل بود. روز تشوی صدقی میدارم مثلا دادم این بله مشرک نکنید خودت نه نه بسات اینا پنج شده کانال زدن این طرف اون طرف بعد پول میدن میگید لحظه تولس ساعت و اینا رو بگو من بهت بگم مثلا سال 2025 چه اتفاقاتی میخواهد برای تو گفت خب شما مثلا گروه میگید شما در سال 2025 -20 یک شراکت خواهید داشت بعد میری یا شراکت اقتصادیه یا میری زن میگیری شوهر میکنی شراکت زندگیه یا مثلا چه میرم و توی تیمی تشکیل میدید یه گروه میگه اینم شریکم می آقا درست تن اومد خیلی از این انتخابات دو آره یا نه 50 درصد میگن دمت میگم 50 درصد میگه اینا چرت و پرت 50 درصد میگن دمش کن ایناست خب پس شد چی مهم اینه که دشمن به اونها استناد کنه دو اگر هم نیرویی هست که دانش ما بهش نمیرسه یه سری شروع که هم علمی کردن بسائلمی داروجش کردن مثلا میگن که این تایمی که قمر در اقربه امواج رو بااستاپ میده به سمت زمین این امواج رو ذهن و مغز آدمو اثر میذاره اینا عصبی ترن آه. من این کاری بودم تو امریکا اصلا تردید نکن ایام قمر در عقربو رو کار علمی انجام میدیم آقا همین بیشتر زنگ میزنن مثلا رجوب به پزش قانونی بیشتر میشه چه منطقی داره ها درسته این همه آدم ازدواج کردن ما 60 و در 50 تا این ساله روزهای تولد تولدوم چپ جلاقه <تصفح> اما این در 78 81 اصلا تنظیمات دارن اون روز خاص بدار مادرشون ما قبل اینا <تصفح> خب بچه رو به روز میبرن رون در میارن و نمیدونم 8 تا اینا دونم چی چی این کارا اینا دقیق تاریخ تولدش ببین آقای بین این تاریخ های تولد و ازدواج‌ها ها ربطی هست بین طلاقه ها ربطی هست همینو بس به هوش هم هستیم میکشی ارتباط میبینی باید این رابطه مثلا یک دوازدهان باشه دیگه یه یکی مثلا یک شیشونه یعنی دو دوازدهم بوده سهمش خیلی بیشتری چیزی هست کار علمی حالا برن انجام بدم اون من مخلصت هستم خودم میام هم 60-30 سخن میکنم برای اون چیه و این تفاوتی هم عجیبه ها که آقا شما که مثلا میگید در این روایت همون رو نگاه کن دیگه زرار که نداره که چهار تا عدد رو میخواید قیاس کن پس اگر نیروی هم هست دانش شما بهش قد نمیده و مسئله تمام کننده نیست قطعیت نداره مثلا همین که گفتم مثلا احتمال وقوع این جور چیزا بیشتر میشه اینه بخش دوم قرآن از استراق سمع اسبرد و من امر کرده گفت این کار نکن یک شو در مورد ما آدما یه زمره رفقای شما جنان خب تو بخش انسانی فهمید ولاتجسس ها فوزیر نکنید یه موقع از شما گوش داری نبی یه موقع از داری گوش میدی فرقی ناسیه. گوش دادن یعنی یه موقع دو طرف میاد دیگه به ذهنت ببارو یه اصلا شما صدا میکنه شما میشنبی. گوش گوشتن توش اراده است مرضی چون داره میگه این حرام خیلی هم سخت گرفتن فقط مثلا رهبر انقلاب عبارت داره در جمع اطلاعاتی ها تازه اونجا اشکالی نداره دیگه شما بکنم اصلا بگه نه من الان نباید شروط کنم این جاسوسه داره چگاه میکنم اونجایی شما میگه رابطه حرام دو نفر رو یه دوستان من که تو اون جلسه او داره من تعریف کرد صوتش هم پخش شد هست حالا بچه ها بگذارن تو تدوینین رو رابطه حرام دو نفر رو گوش دادنشم حرامه حرام ترتیب اثر دادنشم هم حرام رابطه ام. دو نفر حرام ها اصلا زن و شوهرش هیچ تازه این حرام گوش بدی حرام بعد اونم مبنا قرار بدی ترتیب اثر بدی بری بگی آقای اینو داشتن تو داری پرونده قاچاق داری بررسی می‌کنی یاری داره با دوست دخترش عرفای بغدار میزنه اونش به تو ربطی نداره. باید بعضی جاها به رو نیاورد، تجاهل العارف کرد. میبینید خطا باید بعد روشونه برگردونید رو یعنی من ندیدم. یه جهام اینجوری. یه جهایی دخالت اصلاً حرامه. مثلا فرض کنید که گفتگوی محرمانه تلفنی دو نفر را که یه رابطه حرامی با هم دارن آدم گوش کنه، گوش دادنش هم حرامه، اثر ازردنش هم همینجور اینا حرامه. تشایی و مذهب اخلاقه مراجعه ما اینجوره بکنم اوایل انقلاب انقدر سخت گیری تو این زمینه چون تازه انقلاب کردن و حکومت تشکیل داده بودیم دقیقا باید این کار رو میکرد اون ربطی نداشته حالا میخواه دستگاه تلاتی خود این کار رو انجام بده انقدر سخت گیری بود که یک سری از طلبه ها رو آوردن این های طایب تعریف می‌کرد. یک سری از طلبه ها رو آوردن گفتن بیایم شما درس اطلاعاتی بهتون بدیم شما واسط ما و مراجع باشید چه وزیر اطلاعات هم مجتهد بد باشه و کار خلاف شرع صورت نگیره این که چقدر موفق به این هدف میشه بحث دیگه است اما این اصل این اصل بلا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كانوا عنه مسؤولا بدون این چی شو گوش و اینا سوال جوابات بده ییزی کردن این نیست ناموس مردم نمیگه خونه مردم میرید چشاتون پایین باشه این نیست ناموس مردم بری نگاه کنی فقط به وک و وسایل خونهشون هم میگه نگاه نکن به تو چه ربطتی داره؟ ما یه دوستی داشتیم هیچ وقت یادم نمیره چقدر این انسان انسان امین و شریفی بود من یه نامه دادم این تایپ بکنم اول که این مصاف در رو شده رفت بدم. بعد من... یادم نیست هونا هوا و نه نا... هوان نا... چی این کلمه اینجوری بود این و, و چسبونده اون بود به من, من گفتمتون من نه من نخوندم من یعنی چی؟ من برای تو مینوت نوشتم تو رفتی تایپ کردی گفت باور میکنی نخوندم این توجه همه ندادم این, سم. این توجه دادن خیلی دین ایمان و ایمانو خیلی خراب میکنم رفتی روزو میگیری فوزوله میکنی چیزی روزو میگیری به تو چه یه مقصد میبینی داره غلط وزو میخوا باید بهش بگی دیگه برای چی چیزی گردن خود مینسی داری دقت میکنی بیری نمازش درست درست میخونی یا نمیخونی توجه میکنه که نه این الان سادر درست گفت اصلا نگفت باید بری بهش بگی اصل بر فضولی نیست یک بخشی که بیشتره حالا این بخشم بیر رواید براتون میخونم اگر کسی به سخن گروهی بدون رضایت آنها گوشت هد در روز قیامت در دو گوشه بهش داغ داق ریخته میشود نشون دیدم بعض ناخود آگو گوششون گرفتن با می. بادی من خیلی گشتن کار اتولوی گفتیم داستانش فرق میکنه ببخشید من صدام گرفته خیلی نمیتوننم توناج صدام ببرم بالا شاید به این مدل سخنران من عادت نداشته باشه خودم هم به این مدل افزدا عادت نداره. کار اتولوژی داستانش فرق میکنه امنیتی یک جسلام میدونیم گفتیم همون جا اخلاق باید باید بشه. متسلفان این ایام ما دیدیم توی همین شبکه اجتماعی شروع میکردن اطلاعات خصوصی مردم رو به خاطر دعوای سیاسی مجلس و ریاست جمهوری پزشکان جلیل غالباف رو نمیدونم چی نابود کردید دین خود خودتونو برای کیا برای چی اطلاعات خصوصی مردم بریدید توی اینترنت بعد این, ف... این امام صادق این امام مکتب ما اون دنیا ببینم همینه که براش این کار رو کردید میان سراغتون. دو شیاتینه در پنج سوره نه آیه راجب اینا صحبتش الا من خاطفا خطفته فاتبعه شهاب ثاقب مگر آنکه شیطان خبری را دزدانه و با سرعت برو باید و فرار کند. که در این صورت شهاب ساغبی گلوله آتشینی شهاب آتشینی و شکاف اندوم رو دنبال میکن راجب این که اصلا خیلی اصلا مفصلین اینجا مونشی این حتما یه فیزیکی داره اصلا تردیدی در این نکنید بلیا بعضی ها اینا دیدن یعنی ما منظور از شهاب ساغب اون میخواستن برن اخبار ملع اعلا رو بردارن اصلا شیاطین دست چون قدرت فهم اینها رو ندارن این اینا رو من میذارم کنون محل بحث مونیست کشم اما اشاره سریه این شیاطین میرفتن فضولی کنن استراق سمع کنن این چیزی گوش بدن یه شاب ساقو میمد بباشون رو در نفت و حفظناها من کل شیطان رجیم ما حفظش کردیم از این شیاطین رجیم الا منسترق سمع و اطبعه ها شهاب مبین این چی؟ استراق سمه این داره آمدانه سرقت میکنه استراق از هم سرقت میاد دیگه این سرقت داره انجام میده چی؟ آمدانه یه شهابی میاد به بابا شده در بات هم داریم مراد از شهاب شهاب مبین شهاب ساقی یعنی امام سمه از الغاب حضرت ولی هست از الغاب امیر المومنینه میافتند به جای مثلا قدیما میگفت فکر نیست شهید نیست میگفتن اوخرجوا به حق علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب شهاب الله ساقب بیت به کارتون یعنی ما شیعه امیرالمومنین هستیم سر و صاحب داریم برید حساب با مولامونا آیه دیگه یا معشر الجن والانس آیه گروه الجن و انس بر خدا کاری میخونم ان استطعتم ان تنفذوا من, من اخثار السماوات والارض فنفوزو این مردی نفوز کنید لا تنفوزون نمیتونید الا با سلطان من که اون قدرت رو داشته باشید من قدرتم دست من خداست برکی بخوام میدم پس جایی برای نفوز هست که خدا داره تحدی میکنم میتونم اون کنم تو هم دای نود بگفتیم اینا و اونمان ابواب آسمان ازش یاد شده این چی از چه جور دریه ما رو تو فضا زمان چه توه میفته کجا میریم چی نمیدونم فیزیک حرف زده رو به اینا بعد من نظرم بگم من چیزی تفاوتی بین فیزیک و و قبول ندارم از نظر من متافیزیک بخش دارک فیزیکه یعنی بخشی تو نمیدونی چی هست. همین الان ما 4 درصد هستی رو بیشتر نمیتونه بشناسیم ماده هم ماده انرژی که ما میشناسیم 4 دارک متر داریم، دارک انرژی داریم، دارک یعنی ظلمانیه، نمیدونم چیه دارک میبنید سیاه رنگ سیاه نیست میگونم نمیدونم چه چقدر میشن؟ 96 درصد باهم یعنی ما تر چقدر احتمال بررسی داریم فقط تو چار درصد داریم جون میکنیم تمام این کهکشان ها، ستاره ها برو پایین برو تو مولکول و اتم و برو ریستر شو فقط تو چار درصد دستت بازه اصلا ر رفتی عقلی پیدا کردی یه سنسایی گرفتی اما هیچ چیزش اطلاعات نداری خب دار که سیاه هست نمیدونی چی یه جای بر نفوز هست خودم یه مردی بر نفوز مال یه نیستید با هم هم همتون با هم جن جمشید حالا اومدن مفصلان بعض از مفسر آمدن گفتن که یه افلاکی زمین رو احاطه کرده فرشتهایی در اونجا ساکنن اون فلک ها درهایی دارن که از اونجا میشه نفوذ کرد به آسمون های دیگه ای به افلاک دیگه ای بعد این فرشتها تو دستاشون شعابهای اینا که میگن پرد میکنن میزنن یه دیگ کلن تفسیر عرفانی کردن مثلا بیخ راحت حلش کردن مثلا نه عرفانی در بحث کن یا مثلا این جا و حفظا من کل شیطان مارد خب آیا اشاره خود قرآن چیه؟ اشاره قرآن اینه لا يسمعون الالملع العلا و یغذفون من کل جانب تا نرن ملع اعلی سم چیزی گوش کنن جای چو پس ظاهرن این در زمان سفر صورت میگیره میتونی بری اخبار آینده رو بگیری بیای نمیتونی اخبار غیب رو میری میگیری میاد به وقتی مختی فرشت هم میگن خدای چرا این انسان رو میخوای بیافرینی اینکه میخواد خون ریزی بکنه او زمین مثلا فساد کنه تمام چی دارن رفت میزنن؟ قطعا آیند در عملم ما مای چیزهایی دیدیم یعنی چی؟ بریم بریم تو تاریخ چی بود. اما صادق علیه السلام گیر کرد به سراغ اهلوید دیگه میفرما شیاطین از استراغ سراغ من شدن تا در روی زمین چیزی از خبرهای آسمانی که شبیه وحی است نباشد چرا؟ چون مردم در آنچه از سوی خدا می آید، از سوی غیر خدا دوچار اشتباه نشد وحی باید فرم کن دو برای خبررسانی به کاهنان می آمدن این کار میکنن مطلبی به نقل از ابن عباس که گفت شیاطین داخل این آسمون ها می شدن اخبار رو می, می آوردن به کاهنا انتقال میدادن معیدی داره بله میشه بفرمایید کاهنا از کجا میدونستان بچه ای میخواد به دنیا بیاد چه در زمان حضرت ابراهیم چه در زمان حضرت موسا که اومدن به فرعون انتقال دادن مثلا در زمان حضرت موسی و شروع کرد بچارش گفت خبر دقیق تر بهم بدید اینا ها کارگره های من من کل رو دارم از بین میبرم دیگه نسل بعدی دیگه وجود نداره گفتن آها اینم میدونیم که سال زوجه یا فرده اینم گفتن وقتی اینو گفتن یه سال درمیون می کشت حارون برای همین کشته نشده حالا مثلا حارون سال فرد بوده حضرت مثلا سال زوج می‌بینید این قالب مفسران اعتقادشونه قالبشون اغلب اکثریت بعضی مخالف هم دارم که بعد از به سطح پیامبر اکرم درهای آسمان به اینا بستی شد معید داره در قرآن و دیگه شیاطین از کسب اخبار آسمان مهمه شدن اِنَّهَمْ عن السَّمْعِ لَمَوْزَانِ یه برو این کنار برو این کنار صراحت قرآن اگر یکی از شهیطین یا جنیان میخواست بردی یه سخن فرشته ها یا اون اخبار بالای رو بگیره و این نالمس نستماعف و جدناها ملعت هر اصلا شدید هم باشه این سور جنه اینا آمدن گفتن عجب داشت بقیم بقیم قرآن بخون گفتن بس قصه اینه ما میگیمی ای چند وقتی دیگه نمیتونیم بریم سوره جن که اینو دیگه بخونید خیلی جالب معنی شاد داره. چرا ما چند وقتی این راه بسته شده مثلا دلشون نمیدونستن چه اتفاق افتاد مثلا در زمان حضرت سلیمان خدا بر اونهایی که تحت سلطه حضرت سلیمان بودن چیکار کرد بست خبرو. هیچ کاری نمیتونستن برن از واسطه ما خبری بر خوش قرآن چهجوری به چالششو میکشه؟ میگه نه حتی نمی‌دونستان سلیمان مرده. خرمبالیش رو ندامه دادن نفهمیدن سلمان دنیا رفته پس اینجا میگه پس این شد فوجهت نه ما, ما پیدا کردیم ملعت پر شده حراسان اصلا که کسی که حراست میکنن شدیدن خیلی زی آقا معمور بازاره معمور ها ریختن اینجا نمیگه دقیقا نمیده و شعبا شهاب هم هستند دارم و لقد جعل نافذ سماع بروجا ما این بروج و درخشان تو آسان برای شما قرار دادیم و زیانه ها زینتش دادیم برای کسی نگاه میکنن و ها من کل شیطان رجیم و حفظشون کردیم از کل شیطان رانده شده الا من استرغصم افتوه او شهابم تو سوره جن این آیم جالبه گوش کنید خیلی و کنا جنه <تصفيق> ما و ان جن نمیگه میگه ما میشستیم نقعدو میشستیم آودیا نشست منها معاقد لسم جاهایی که برای شنیدن بود مکانهایی که برای شنیدن بود میرفت اونجا میشستیم فمن يستم الان يجد له شهابن رسالتو یعنی انا بازی عوض شده میگن تا زمان حضرت عیسی علیه السلام یعنی تا بالا تا اون هفتم میرفت تا وقتی باب بعثت پیام حضرت عیسی تا اون چهارم بسته شد باب بعثت رسول الله کلی که براشون شد دستشون بسته شد دین خدا رشد کرد فهمین چی شد یعنی این شیاطین اینه هرچی محدودتر محدود تر شدن انقلانیت بیشتر توضع بده کرده نکته ای داره اینجا اینایت داشته باشید این که گفتن نه منظور میلاده امام و عزت رسوله این قلته چون این جنیان چی میگفتن؟ اینا میگفتن به عصت رو دارن میگن یعنی می عجب پس این آقا اومده که این اتفاق افته این پیامبر شده که این اتفاق افتاده مثلا از ابن عباس داریم نقل کردن که می در زمان جاهلیت هر یکی از کاهنان شیاطینی رو در استخدام خیش داشتند این میگن موکل داری موکل داری ببین این قواظه اون موقع است که این تو مکانی از آسمان می نشست و اخبار مربوط به حوادث و آینده و فلان و استراق سمع می‌کردن یا بدنا تعویلیشون می‌دادن می این کاهنان باشتون دستخواره می‌ذاختی که بده بسون داشتن با هم دیگه یه حالا تو یه کاری بکن اش میتونی ردیف کنینا مارم بپرستن آرابر همین این بوت ها مردم دیگه قدم خر نبودن مثلا یکی که سنگ رو این سنگه نمادی بود از اون شیطانی که دیده نمیشود با اون یه کارهایی میکرد دستشون باز بوده از اون سراحت قرآن این دیگه اصلا قابلت مالکشه وجود نداره هیچ جوره نمیشه سراحت آیت ق یو علمون الناس از آموزش میدادن به مردم سهر یو فرقون بهی بین المرعه و زوجه صد و دوی بغره در موضوع زمان از سور اسمشون هم برده هاروت و ماروت این که قرآن میاد اینجا اسمی برم محل توجه ها هم از دیدگاه زمانشناسی و غیره و غیره که باید وقت گذاشنها رو کار کرد چرا باید این اسم رو ببرد یاد میدادن حالا این بحثی برخی مطرح کردن خب آلم و فسرانه من نمیخواهم خیلی وارد بحث تفسیریش بشم یه دی میگن نه از اول هم بهشون بسته بوده میگه په این می, رفتیم، می آوردیم خدا رد نکرد درفت جنه رو خب میگه نه خدا هم. اول گفته ما از اول حفظ میکردیم یه درماغل شیاطین پس اون اخبار که می اک کجا میکنه یه حرفای اینجوری استدلار میگه که همانطور که ما آیه داریم تو قرآن میگه ما منکم از خودتون براتون پیامبرانی قرار دادیم یعنی از بین جنیان هم برای خودشون پیامبرانی داشتن منتها پیامبران تبلیغی بودن صاحب شریعت نبودن همون دین ازت موسیقی مورد تبلیغ کرد همون دین مثلا از ابراهیم مورد تبلیغ اینطور حالا عزت ابراهیم صاحب شریعت در عملی من بحثم کردم راجع به یهودیت و مسیح. اینا میرفتن ملائک آموزش میدیدن. می اومدن به مردم میگفتن این مردم بعد از مورد چاافه در سوختگی می شدن دیگه میکرده. آیا معید این داره؟ بله همین ماجر از صودگی. اینا داشتن به مردم یاد میدادند که چی خودشون در مقعه شریدین حفظ کنن بعضی از اون سو استفاده میکنن. مثلا فکرونی زن و شووهر به هم اختلاف ناخته بودن این و یاد مین که چیزی محبت به وجود بر ب دو نفر اینا گرفتم می بودم بین دو نفر دیگه به وجود می آوردن که <تصفح> اون خودش حرام بود. یا <تصفح> مثلا یاد میداددن اون محبت حرامه که شه گرفته رو جدا کرد اینا میورددم اینو زن و شوهر میداختم اینا رو از هم جدا می برعکس بر استفاده کرد. قالب اینا هم من همینو به اینام برگرده به همین آور میگنی به بنی اسرائیل بر میگرده حتی این هم که خیلی عربی می نویسن و این سرراع سررا می هر کسی رفت خوشون نابود کرده مشررک. اگرم نمیدونسته توبه کنه هرچی هم گرفته برزه یا آب روونی بره روش های هم هست اشاره شده علمای ما گفتن مثلا یازده های اول سور صافاتو به خونه چه هست این هم موضوع بحث ما چه من هم ربطی ندارم حالا بریم سراغ این قصه ای استرولوژیست ببینید اینکه شما بیای بگیم مثلا مردهای تایمی عصبانی ترن و زنها زمانهای نجومی ها نه فیزیولوژی و این چیزا نمیگم مثلا عصبانی تره یا مردم فلان جغرافیا ممکنه براشون بلایی بیاد یا ها اینا داریم اینها گفتیم با دو پیشو گفتیم مثلا ما میگیم همه چی خدا معرفت چی, چی؟ معاید قوی فلانی نداریم تو مسئله پیش من یک ارتباطاتی بین آسمان یعنی جاهایی که اینا میرفتن میشستن و خبر میدزدیدن شد ریشه دانش اینا و اون پنج روزی که این کار دسته کیه مثلا همین نوعی که الان آسترولوژیستن اسم مدرنش آسترولوژی همون کهانت مثلا جالبه میگن فلانی خوب میگه میگن چرا خوب میگه بهتر ستاره ها رو میشنستن نه این چی میگن؟ میگن سحمل خوبی داره سهم الغیبی چی؟ اخبار پنهان. این یه چیزی که شده داشت مهارت یعنی مثلا علم فیزیک، چه کافر باشی یا مسلمان. دو تا چارت ریاضیات. این چی دیگه است؟ یعنی یه سهم الغیبی داره که تو این معادلات چیکار میکنه؟ میاره تو رم رو لا بنداختنش دخیل میکنه. این سهم الغیبیش از کجاست؟ همه‌شون هم میگن یک فرشته ایه. در واقع چیه؟ یه شیطان این شیاطین حالا امروز که دستشون بسته چکار میکن؟ یک اخبار قدیمی که دستشون باز بوده پیشگویییا که فقط برای امروز فردا نبود سه هزار سال دیگه میخواد یه نفر بیاد دو هزار سال دیگه پیغمبری میخواد بیاد نبوده در آخر و میخواد فلان بشه نبوده همین ما کلی تو ادیان و مختلف به صدجا به آخر زمان که خیلی آ محقق شده خداوای کلی داری می دو اخبار درستی که می رسید توسط انبیا بیان میشد این استراق سم الزامن استراغ سم تو آسمان نیست گفتگوی چند نفر میتونه باشه این که می کارها رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنید برای چیه؟ برای. یکیش همین هاست جلسه می بذارید قبلش یه سور قرآن بخونید اون طرفی هم الا ماشالله این چیزا دارن استفاده میکنن از همین شیاطین استاد این چیزا دیگه مالو سه گوش خوابهای مؤمنین روح مؤمن میتونه اینو بره بالا من این نداره میره یک رویای صادقه ای میبینه میاد شروع میکنه برای اون تعریف کردن وقتی یه تو تو چه انداختی این شنید اون شنید اما ایکس و ای روز چندا اونا نشناون اونا اینو میدونن یعنی چی در زم اونا خیلی قشنگ قشنگه اینا رو جمع می‌کنم بیا مثلا چند وقت یه مؤمنین دارن تو این موضوع خواب می‌بینن و تعبیرش اینه یه چیزی رو حدس میزنن می‌چینن کنار قرائن دیگه به یه چیز کلی میرسن می‌بینیم مثلا 60 70 درصد درست در میت 70 80 درصد درست در این که میگن رو جای نگیید فلان برای همین چهان ای بس هم حالا بارده بحثی تعبیر خواب اینجا نمیشیم چون اون یه فضای دیگه یه اما خب معبرام زیل همین قصه ها چیز میشه اما خب ماجره حضرت یوسف ما داریم دانش الهیه یه روز بابای اومد پیشه ابن سیری نگشته با نکنم گفت ما بدبخ شدم فلان شدم چی شده؟ خودش که من دیشب د گفت تو بشین. یکی جماعت گفت آه آه, آه آه من خیلی خواب خوبی دیدم بگو تعبیرش گفت, چیه گفت چی گفت بهشتو داده بودن به من. این گفت چه گفت تو دیروز قرآن گم نکردی؟ گفت چرا قرآن هم گم کردم مثلا سر قبرستان جا سر قبرسونی مثلا رفتم قرآن بخونم قرآن را جا شد. گفت شما گفت قرآن پیدا نه گفت چرا من تو هم قبرس قرآن رو پیدا کی؟ این تو چی فکر میکنی چیه؟ یه یه نفر اومد خدمت یکی از فیلم‌کرامون باقش آدرسیت. این تو تو زهنمه. خیلی مگه از معصومی بعد گفتش که من خواب صورتم صورت هم سیاه شده اما اون نگران نباشه خدا به دختر میده خود چه رب تو داره گفت کفت من یه آیه قرآن نخوندی که اینا تو جاهلیت وقتی دختردار میشدن از شدت ناراحتی صورتشون سیاه میشد ببین یه زبان دیگه یه ترنسلیتور دیگه ای میخواد یا مثلا گاو شما سال بدونی ببینم معبرین چیزو مدام گفتن بفهم گفتم, گفتم این ما در همین حد میدونیم که گاو به سال رفس داره بیشترشون نمیدونم خواب بد دیدی صدقه بده خواب بد دیدی خود تعبیرش کن خواب دیدی پات شکسته به درد میندازی پا میشکن خب تعبیرش که پات میشکن همینها یه بار یه زنیره خدمت پیامبر رسید گفتش که یا رسول من خواب دیدم سقف خونهم خراب من خیلی خوبه باشه بروش فرد یا رسول الله دوباره هم خواب دیدم سقف خونم خراب شد گفتم میگم تعبیرش خوبه برو دفعه سومه که یا من دوباره خواب دیدم سقفم میگم تعبیرش خوبه توجه نکن برو صدقه بده مثلا خلف تو تورا گفتش که چی هر روز میبینیش پیغمبر گفتش که آره من خواب دیدم سقفم خراب شد گوها شوهرت میمیره فرد شوهرم مرد ما چی فهمم گفت یا رسول الله تو میگفتی او خب. اون تعبیر کرد من بر تو خیر تعبیر میکردم هر تو فاله نیک میزدم او گذاشت تو کاست خب نشد جوند به <تصفيق> مسئله اینه حالا چونه؟ واقعی خواب بیدم مثلا خواه پا شکست پا شدم چونه پا تو آرون بزن بید چوبی خوب خوب تعبیر کنید آقا صورت سیاه خدا میخواد بشید نسل بر برکت به طرف بده دختر میخواد بده چه به چه چیزی بهتر از فرزند دختر خب؟ از این میشه آقا بهشتم ها دست دادم لا با جهنمی با قرآن تو گم کردی ببینی چیزی که شما فیلی میکنی چقدر مهمه یا چقدر خوبه یا چقدر بده بازن اون نیست اصلا و دقیقا میره 180 درجه برعکسشه خب چرا این کار رو بکنی مگر می شود در زمین خوابا رو شما توی ظرف مغزی تو نریزید میگن چی؟ یعنی سان امکان نداره روح شما میره برمیگرده میخواد ترنسلیت کنه بر مغز شما میریزه تو دایره شناخت شما چرا مثلا شما امم ما رو خواب میبینید بعضی مصاحب ما میگن شبیه یام عکس خواب دیدیم چون اینو دیده این تو ذهنش نشسته متوجه شدید دلش اینه خیلی از این تجربه های نزدیک به مرگ و این چیزام که میبینید تجربه زندگی شخصیشون کاملا داخل درش داخله این نکته من یه روزو بعد بشینم و مساله رو کامل باز کنم براتون خب چون نقدایی دارم من مهمه این نباید به یکی از ارکان شناختی ما تبدیل بشه ما میگیم قرآن داریم روایت داریم ها؟ عقل. این نباید تبدیل شه. آقا زندگی پسر زندگی هم گفت خیلی اولا که اموم اینا چیز کدوم مرگ نیستن مرگ رفتی داشتی که برگشتی ای نیست این یک دو حتما تجربیات زندگی شخصی این فرد درشت تأثیر داره من یادم هست یه هتل بودنش داشتش میخوان من بهش میگم که ما رامزون بعد این میگفت که من رو مثلا میدونم با یه کله اسبی افتاده بودن دوباره منو گوشت استبر میکردن بخوردم میدادن هم چیزی گفتم که گفتم ایشون تو زندگی شخصیش از اسب میترسیده او بابا شمالی طرف مثلا تو شمال همینجوری پر اسبه گذشت 20 دقیقه بعد نیم ساعت بعد خودش گفت گفت ما من خیلی از اسب میترسیدم ببینید عین میشه تو اون ظرف تفکی که این کار هر کسی نیست اصلا بعضا پیش میاد که خود شما مثلا میگید آقا من هر موقع مثلا چه میم اون دایی ما خواب میبینم به خیر میرسه یا اون دایی طور که من نمیشنسم که این شخصی شماست یعنی اون خیر و برکت میخواد تصویر پیدا بکنه شبه اون دایید میشه تا اگه شبه اون عمت هم که میشه مثلا به آسیب میرسه تو فالنیک بگیر خب این تا اینجای ای ماجر یکی از نکاتی که خیلی برای اینها مهمه و مهمه واقعا مهمه پس چی شد؟ یک اخبار می گرفتن. دو جاشون کجای آسمانه متحد شدید؟ در گذشته از دقل بوده می رفتن می الان بساتشون جمع شده اما اونا که نمیخوان بگم بگن بساتمون جمع شده میخوان خوان کماکان به قدرت نمای خودشون ادامه بدن این شد که هر گوشه ای از آسمان یک اسمی برای خودش گرفت و این اسم بله به شکلش ربط داشت یه چیزی که مثلا یه خط صافر یک تونه میتونی دایره اینشون بدی داشت اما بی ربط هم نیست گرفته چی شد بی ربط هم نیست مثال ببینید این حروف ابریه خب همطور که میبینید از الف به جیمل دالت میاد پایین هر کدوم اینا باز چند حرف میشن دقت کنید الف فقط یه آ نیست توش الف هست توش لام هست توش فا هست یعنی خودش چند حرفه سه حرف چشیم یه چهار تا الف نه خب با خب اونا بت بعد ببینید این, این تلفظش اینه معادل عربیش اینجا نوشته. بت سه حرف گیمل اینجا جیم نوشته. سه تا همینجه چهار تا اینا که جمع میزنی میشه شهست اینا زبانشون الکنه به اون عدد 72 دو, دو نمیرسه در عربی اتفاق عجیبی الف که خودش ستاست با که خودش دوتاست تا که خودش دوتاست اینا جمع میزنی می‌رسی به عدد چند؟ هفتاد دو اصلا زبان عربی برای اینا خونی بود من عرض کردم قرآن خیلی جاها یا جواب اینا رو میده هزار آیه قرآن در مورد ایناست که نمیده شما نبینی بیتفاوت باشی بشه جوابشونو داده اساسی هم داده باباشون هم در خب <تص> الان اینجا گوش کن. دایره طول بروج همین شکل که تو آسمون هست انا قشن میریم اون روبه کامل با نرمفسو میریم میبینیم خب اینا هر کدوم نسبت دادن به یکی از شایدیم در مصر میگفتن اهرام گیزا اهرام سلاسه این با صورت فلکی بریون یکیه شکارچی با کمرش یکی میدونست شعرای یمانی که اینجا بود می گفتن خورشید زاده میشه اون میشد بوسریس شهرای یمانی می میشد آیسیس و فرزندشون خورشید زاده میشد هرس دقیقاً اون رو روی زمین کپی زدن یعنی این سه تا حتی توی خطم نیستن یکیش یه خورده پایینتره. دقیقا چون کمر صورت فلکیج هرم از بالا انگار شما یه چارت یه مربع اینجوری بکشید چهار تا خطش رو وسط به هم باش عمق اونشو می هم از بالا انگار دارید چیز هرمی رو می‌بینید درسته؟ قطرای شده با هم بس کردن. اینا ستاره رو یک راه میدونستن این رو زمینم بعد این کوریدور این راه این دالان یه جای گیرنده می‌داش این می اون گیرنده. این گفتن محل عبور برو مرورش عادی. حالا اونم گفتن خدایان براش آدم قربانی می‌کردن. اون پله‌ها کلی خون‌ها ریخته شده. بچه های کچیک رو و چه او چه او که من جلسه قبل مفصل از تورات و اینا اسناد و شواهدش که اینا خودشون معترف این کارها رو انجام میدادن آوردن براتون نمیخوام وارد بحث نماد شناسش تا حدی که بقیه اجزای صورت فلکی جبار رو خب یا شکارچی رو ببینید این مثلا صورت فلکی جباره یا شکارچی یا اوریون خب نگاه بکنید یک دو سه این کمال می‌بینی در یک راستان نیستن یه خورده جاشون متفاوته دقیقا هم اهرام سلاسه مصر متفاوت خوب و یکیشون هم باز بزرگتره هم گیزا معادل این ساختن جالب بعدن باستان شناسا اومدن همین الان هم گوگل کردم اینو همینج یه سایت واسه باستان شناسا اومدن بقیه نقاط رو هم این خیلی جالبه بقیه نقاط رو هم رو همین فا... گفتن اگر این فاصله تا تو آسمون انقدر روی زمین انقدر بریم ببینیم این فاصله تو همین درجه کجا میشه دقیقا هرم پیدا کردن معادل تک تک اینا هرم پیدا کردن اینا اینن اون بالا رو با این کپی زدن برای اینکه چی خدای خورشید بهشون نظر کنه و اون مراسماتشون رو اونجا انجام میدادن خیلی کار سخت و بزرگی انجام دادن اون حجم از وزن روی خاک اینو رو مهندس عمران ها یعنی چی چطور این انتخاب شده زمین شست نکرده بعد از 5000 هزار سال 4000 هزار سال همینجوری بود تعداد احرام خدمت شما ارزم اتیوپی به مراتب بیشتر از مصره اما کوچیک کوچیکن و همینجوری داغون شدن رفته بیکارش. این صورت فلکیه جببار که همین دیگه اینا معتقد بودن آن خدا اینجاست گفتم هر کدوم معتقد بودن یک جای در آسمان نشسته قرارم گفت بیمیگه که محل قعودشونه اینجا میشینن خب میبینید یک دو این یه خورده فاصله داره این دقیقا با دقیقا اینجا همین شده دوستان میبینید خب متاسفانه این سازی ساخت حرم خدار حرم الهی و مسجد الحرام هم دادن دست اینا و اینا متاسفانه بدترین صورت فلکی رو این سهیونیست رو نورمفاستر ساخت اونجا و یه فراموسونار سهیونیسته ما اول بریم اون ببینیم بیه توفیق داشتیم دو سال پیش رفتیم جاتون خالی ها مشکل خورد ما نایب هم بودیم تو من برجام رفتیم نمیشه من نرم اونجا نزدیک نبینم قضاوتشون کنم بنده خدا ببینید اینو خوب نگاه بکنید تو من اون یک تصویر میخوام نشونم ببینید این یک دو سه این میشه کعبه وسط اینجا ببینید سه تا بخش اینجوری کشیدن آوردن یک راه کجه اینجوری این پایین آوردن چرخوندن برای شما هم سوال برام هم این جدی که اینجوری اینجوری میزنه مثلا تو با این کار میکنه الان که یک جای کار به لنگه برمین. این با خطفش بس میشه دیگه این اون ستا میشد این میشد کعبه، این هم اون جاده کجی که اون یعنی 90 درجه به چرخون ببینید این یک دو سه میاد این اینجوری میچرخیم به دنجا خب این آمدن و نحسه دیگه اقرب از اماعاتش داشتن برای تو میگفتن دیگه. خب اینو آوردن روی کجا پیاده کردن برم. خادم خادمه این حرمین ای کیا آره درست کردن داره می میسازن اصلا اونجا اگه رفته باشید منطقه کوهستانیه حالا که حج رفته میدونه منطقه کوهستانی فقط دارن کوه میکنن اسری داره جان اون چی فکر میکنه متوجهید اون چی فکر میکنه اون میخواد مثلا اینجا رو مرکزیت مثلا نهوست قرار بده اون میشه اصلا این که هیچ این که اول حرفش رو زدیم نظر امیرالمومنو رو گفتیم و علمامون فلان تمام اون که نظر ما تمام اون از خودمان همم هم. اما اینکه اینا میخوام بدونید براشون بسیار مهمه این مهمه این تو ذهن شما بشنید چرا شروع میکنن کاری که میخوان انجام بدن و با اینا تطبیق دادن به زور درست کردن. بعضاً بچه ها بعضی از این چیزهای اتفاقات نجومی و ها جور در نمیاد در نزدیکترین زمان ممکنش انجام بتم اصلا بهتره که مثلا سه دیگه انجام بشه هم ترجیحشون اینه تو این تایم مثلا انجام بدن. این شکلیه چند تا مثال براتون زن؟ اینا مثال هم نبود اینا مالا ها بود حالا هرچن که عبر توازه اما در حال ساخت و سازن اما مثلا در ماجرای خدمت شما عارض بشم اینا صورت فلکی اسد شیر خب نماد قدرت رجلیوس یا رگولوس قلب الاسد خیلی مهمه اگر جرم آسمانی در اون صورت فلکی قرار بگیره قوی میشه این حرفش خیلی از اتفاقات رو اینجوریم می‌مزم من فقط اسد یه دونه مثال برات میذارم و دو تا آشوب در دنیا خب کیون اینا چه جوری این کار انجام مثلا امانوئل مکرون 5 آوریل 2023 بیس سفر کرد به چین در اونجا با شی جین پینگ جلسه ای داشت سر به جنگ اوکراین صحبت کرد گفت از نفوذی که روی روسیه داری از از چینی‌ها خواست کنترلش کن مثلا روسیه رو ازش بخواه مثلا متوقف بشه در مذاکره بیاد جلو ترغیبش کن همین که میگم همینا رو سرچ کن اخبارش میاد بالاخره دو تا مسئول مهم در دنیا نشستم با هم صحبت کردن کلی فیلم و و خبر رو اینا مخابره شد روابط تجاری رو صحبت کردن تقویت هم کره‌ای اقتصادیون یه حرف دیگه زد استقلال راهبردی اروپا بر این تاکید کرد ماکرون و خا... عملا خواستار کاهش وابستگی اروپا به آمریکا شد این غلط اضافه است این دقیقا اون چیزی که امریکاا متطلاع وسییونیستا نمیخوان اتفاق بیفت پدرش هم میزنن در میارن اینجا بود که اینا ترایشون شروع شد میخ... میتونستن فرانسر یه ماه بعدا به هم بریزن گذاشتن دو ماه گذشت. در ماه جوان ماه جوان میشه ماه بله ششم میشه بریم نگاه کنیم ما اولا تاریخی گفتیم چندم 20 بیس بیست و سه. یاد نمیریم بالا چه ماهی شیش بعد میریم خب میبینید که مارس سیاره مریخ وارد چی میشه وارد شیر میشه درسته میبینید و اینجا مقایسه پیدا میشه بین رگولوس یا قلب الاسد کاملا رو هم میافتن مارس نماد مریخ نماد کیاس مردها مردان مریخی زنان ونوس اینجا تایمیه که با یه هفته دو هفته مرومات که شما میتونی مردا رو به آشوب بکشونی اینجا مردها چون وارد صورت فلکیه نمادشون میری وارد صورت فلکیه شیر میشه قدرت میگیرن پولیس شلی کرد به یه آقا پسری در فرانسه 17 ساله و فرانسه رفت هوا دلیل فرانسه غلط اضافه کرده بود در مورد استقلال اروپا از امریکا رفته بود چی؟ آفرین قبلش این آقای مکرون رفته بود اونجا ریختن به دقیقا شبیه اتفاقی در کشور مدل به مریکقا مدل چی بود؟ مدل اتفاق خودمون فوت خانم میری بود. بریم اونو نگاه کنیم اون چه تا می بود؟ سپتامبر ۲ 2022 سپتامبر۲ 2022 16 سپتامبر ۲۲ بریم سپتامبر شما نهم. سال یه دونه کم میشه ماه نو سپتام که 11 سپتام 20 22. بریم خب بریم دوباره رگولوس رو پیدا کنیم دقیقاً میتونید لوکیشن بدید بگید 5000 هزار ساله پیش یه نفر تو اینجا بوده چی میدیده تا این حد خب زیاد رفتم جورو برگردم بله ببینید این بار چی توی صورت فلکی ده ونوس ونوس نماده که بود؟ دقیقای اتفاق که افتاد روز دیدار باز هم آمریکا چی روز دیدار آقای رئیسی با شی جنگ پینگ در ازبکستان و صحبت درباره عضویت ایران در پیمان شانگهای. های به من کاری ندارم واقعا اون موقع زنها قاتی میکنن نمیکنن من پونه اصلا کاری ندارم مهم اینه این اولاغ این شکلی فکر میکنه. حله؟ یعنی او اینجوری این اعتقادات این صحیح یه ماه گرفتگی میشه شما او تو این اونجا همی اونجا وله میشه ببین کابالیستای اعتقاداتشون چی یه دونه شاب سن... یه ستاره دنبال دار کنار زمین رد شده ستاره اطلس هر هشتاد هزار سال یک بار میاد رد میشه هر هشتاد هزار سال یک بار از حجم حرفهایی که اونا میزدن من کب کرده بودم این و هیچ برای ما مهم نیه هم برای اونا ما اما ما تو نشانه های آخر زمان ما هم داریم مثلا داریم روایاتی که میگه کوکبی میاد مزنبه یعنی دنبال داره منعتفه یعنی صاف نیست سیخور دومش کرد میشه به خاطر این, این جاذبه خورشید این قبار این رو سمت خودش میبره دار آسمان اینطور دیده میشه فلان یک تایمای چیزایی باید بزره بر نشونه دیگه خب ما هم داریم اینا رو داریم. حالا اینه نشونه های حتما آخر زمانه نه ما حرفم نیست اما بدونید اونها اینجا ما اصلا تونیم اینو سلسله جلال صد داریم شما رو ذهنتونا با منطق سیاسیشون آشنا کردم اقتصادی آشنا کردم و کوریدورها آشنا کردم درسته اولام اونها رو گفتم چون یه ماش بیمار روانی توی مملکت میاد گفتم ببین رفتار دو گ... در موضوع چی داره حرف میزن هم میخوام بگم اینا هم عقبه های فکری شونه اینا هم تأثیر داره تو تصمیماتشون اینا رو هم ببینید پس این صورت های فلکی رو جایگاه شیاطینی میدونستن برای اینا قربانی انجام میزن میماری روی زم... رمین... زمین تنظیم میکردم برای اینها که بگن ما قربانی رو تقدیم کردیم درست شد یه مقایسه‌ای دیگه هم داریم خیلی مهمه خیلی خیلی ببینید این مقارنه های تایمای ما این خودم در بوده تایمای مقارنه های زحل و مشتری. اینه شما سر در اگه ایچیم یه عدد مدد هست توضیح میدونه اصلا هیچ نگران نباشه خب این سپریشن فاصله آرکمینه خب این برای ما مهمه از شش درجه کمتر چش دیگه تفاوت رو نمیتونی ببینی یعنی انقدر کرمه به هم نزدیک تو یه چیز می‌بینی. ببینید شما لگه نزدیک این فاصله یه چه میدونم دوتا انگشت منه میبینید خب بری دور اصلا خودم یه چیزم درست شد از شش درجه کمتر دیگه یک میبینید این چی بوده؟ ستاره طولو نمی‌کرده کرده دوستان اینا مقارنه داشتن از دید ناظر زمینی مدارهاشون یه جوری این زمینه یه سیار اینم یه با سرت بیشتری میچرخند کمتر میچرخه خب اینه که به هم می نزدیک می شدن زمینی قبلش تو تا ستاره داره می بینه به هم که نزدیک میشن زیر 6 درجه یکی می فکر می یه ستاره جدیدی چی شد؟ آفرین طوللو کرد یکی از این مقرانه ها که بینهایت مهمه مقرانه زحل مشتری خیلی اینا کی رخت دادهه ما زیر 6 های این که خیلی کمی اصل یه کن رو روعمل خب. دو سه روز هم تو رو بیا مثلا بیا نکنه راحت بعضن مقارنه رجعی داشتن این دیگه چیه اینا واسه نجومیه علم نجوم نه این کهاهانت مهانته موقع بخاطر اینکه سرعت اینا تو مدار متفاوت خوب دقت بکنید فکر کنید این یه سیاره است اینو با اینو داره یه جور می‌بینه خب یه بار این طرف می‌بینه یه بار میاد دور می‌زنه اینجا می‌بینه این فکر می‌کنه اول اینجاست بعد که اینجا وقتی خط می‌کنه اینجاست این در دید ناظر زمین این میره دوباره برمیگرده. اون نرفته برنگشه تو جا تو عوض کردی. متوجه شدید چون سرعت متفاوته بعد این موجب می شد که این فکر کنه مثلا چند روز این ستتون اونجا وایستاده تلسکوپی نبوده که بهشین نگاه کنه. تقریبا هر 400 ساله بار رو خوده. ببینید مثلا این سال خدمت شما از کنم دییت کو آریاش سی دو 400 سال بعدش به این 769 ردیف چهارون میبینید رو از 4 و 3 همه درجه است. 400 سال بعدش میشه چی؟ 1020 ببین روی این 2 که ردیف دوم بعدیش 400 سال بعد 1623 آرکمینش 52 ده همه خب بعدیش چیه؟ 20-20 خب وی افتامیش 6 و زیر 6 شما یکی میبینید دیگه جالب اینجا خیلی اتفاق افتاده هم 20 20 مقارنه اینجوری داریم هم 20 80 این خیلی هم نزدیکی خوب یعنی هم این سال 20 20 اتفاق افتاده این چیه اینا میگن هر بار این اتفاق بیفته قدرت رو کل کره زمین کنفای کن موازنه قدرت به هم میگه تقریبا همین ها براشون. تاریخ دورانو میگن میگن چار 400 سال پیش این اتفاق افتاد هر هشت سال خیلی مهم تره این بیس بیستیه اون 800 ساله هست که روختار و میگن ببین جنگ روسیه و اکراین و درگیری ها گسترش میدا خواهد کرد و کل جهان رو خواهد گرفت قدرت های جدید میخوان سردن میرینرم چند سال حمله مغول همینطور طلوع صفویه یه یعنی کس که اثرات جهانی داشتن. اینم برایشون بسیار بسیار مهمه، گر هم با یکیش هم در زمان ما رخداد ما معن چهار داریم تا یه مثلا ما تا چهار سال یهبار آ مثلا ماام دیدی میدون تو ایام حال شما اون۲۸ هم ببینید عمر طولانی داشته باشید به ما ها که نمیکشه. ما در شسته خیلی قصه میخوردیم و مثلا میرن اخبار و موقع رو سفر مکرون به چین و تعمیق شکاف اروپا و امریکا اون موقع <تصفيق> چه اتفاقات میخواست میگفت خب یکی از ساله جاله دیگم بتونم اینا از مدت ها قبل میگفتن خدمت شما عرض بکنم که در همون سالی که محصا امینی یعنی دو بودی درسته میگفتن یکی از رهبران خدمت شما عرض کنم جهانی میخواد از دنیا بره. خیلی تبلیغ می‌کردن. گفتن سال 2022 همین اتفاق میفته و از رو همین چیزای نجومی میگفتن. آی نسراداموس پیش بینی کرده. ببین مثلا من همین الان گوگل کردم اینجا. هرچند پیشگوی پیشگویی برای سال 2022 از جنگ یا حمله به فرانسه تا قحطی و تورم و مرگ یک رهبر بزرگ اینا شروع کردن تو همون ایام سپتامبر رو اگه خاطرتون باشه صحبت شایه فوت رهبر خودمون خیلی تا جایی که کار به رسانه هاشون کشید یعنی یه خیلی یه موقع مثلا یه چار تا سایت زرد و کانال های درپیت اینا میزنن یه موقع است ماجرات جدی میشه و خدمت شما عرض بکنم نیویورک تایمز و نمیدونم اینا شروع کردن شروع رای این شکلی نمیشتن خب؟ و اتفاق افتاد اونتا ملکه انگلیس بود نکتش در واقع اینجاست هست اینوارد چی گفتم میگی باشه تو اصلا تو نجومم هم تونست در بیاری که یک رهبر بزرگ میخواد چیه بمیری از کجا فهمیدی اون مربوط به کدوم جغرافیاست؟ تو گفتی باشه مارس اومد وارد شیر شد خب باشه اوکی از کجا می فهمیدی می بدونی که به فرانسی فرانسه ریزه برزیل بریزیل می خواهد بریزه درسته؟ کدام کدام صورت فلکی كد... چه چیز آن صورت فلکی را تمثیل می کند اونا می گفتم فلان در حال افول است یکی از رهبران جهانی خب منو که به درک باسلش پس همینی که میگن نه اون بخش رو چی از چی میدونیم؟ از سهم غیب سهم غیب یعنی چی؟ ب بازی این طرف یه یعنی یه من یه جنبندی بکنم براداره عزیزم خوهر روی من اینا به اینا اعتقاد دارن بر این مبنا عمل میکنند ما اعتقادی نداریم خودم تو دهن اینا زیاد زده هی با 72 بازه میگه آبای باشو <تصفح> با 12 بازه میگه آبای 12 ما مفرستم 12 توی ما مفرستم مثلا چی اینا رو میره اینجوری دوست داری باش یا ان عدت شهور این الله اصنا ما دوازده تا ماه داریم در قرآن تعداد ماه نزد خدا خدا دوازده تاست فی تاب الله یوم خلق از سماوات و از اول یه همین بوده خب آره ما از تنیه گفتیم اونا بدلش رو زدن یه مسئله اینه رمی چی شد؟ درستش این بود اونا رو زدن دوازده امام از اول معلوم بودن از روز اول خلقت اونا برای اینکه اینو بدل بزن اومده این بازی ها رو درست کردن اینا. منها اربع تون هرم چهار تاشون حرامن ماه حراما چیان سفرم هم هست رجب محرم زلحج زلقعده من هیچ سفارو نمینم چون منم رفیقان با هم همیشه هم هم میاد محرم سفر خب نیست همه توبم کنه نمیدونم چرا خب امام باقر علیه السلام میفرمود که این دوازده تا ماه مایم و اون 4 تا مون که ماه حرامن علیایمون که خیلی برای خدا مهمن نه که بقیه ما مهم نباشن توجه داده میگه 4 تا از ما چهار تا از ما ازشون دیگه علی ابن عبی طالب علی ابن حسین علی ابن نه رضا علی ابن محمد امام هادی جالبش اینه که تسجیل امامت این امامه بریم چه ماهایه امیر المومنین که مشخص شد امامه بعدیه امیر المومنین قدیر زلحجه امام سجاد که منو شد معرم امام رضا یعنی شهادت امام قاسم شهادت امام کازم که رجبه شهادت امام جواد که زلغده که شهادت امام جواد میشه امامت امام حادی علی ابن محمد علیه السلام خب. بله این قرآن اجازه یه چیزی میگه در ظاهر ما میگه ما خواهیم تو ها اینه چکا میکنم عرب ها برای اینکه بتونن ماه های ساله قمری شمسی تو هم میلولیدن میچرخیدن زمین الان اینا من که تو فصل خوب نگهدارن، ترمز می زدن فصل خوب بریم حج راحت باشیم خب آیه قرآن و من انما نسیو زیادتون فلکفر حق ندارید این کار رو بکنید خیلی سخت گرفت خب بی خود میکنیم این رو دستکاری میکنیم آیه بعدی شید بله انما نسیو زیادتون فلکفر وزلوا به اللذین کفروا بابا چرا انقد اینا هم این در ظاهر ماهای حرام دستوین ماهای حرام نمیجنگن جنگو نمی جنگ میذاشتن کنار اصلا خدای کاری که انجام داده بود که اینا دائم درگیر نشن یه خورده مجبور بشن صلح کنن حالا ببینیم بی شرافا در ماه محرم الحرام ابو عبدالله بشاولهس خب حالا رو این حسابی اینو بگم اینا دارن میگن 20 25 سال خون و خون بیس چون ریاضیات 20-25 پنجم عدد خواست خب و از سالها قبل هم راجبش شروع ورسره هم کردن درست شد؟ حالا میخوان چی کنن کجا دنیا چه جنگایی درست بکنن الال مالا به شما قوی باشی قدرت داشته باشی انسجام و مردم اش خالت روی کن بگم از این سالها زیاد از این بازی ها در آرده اینش خالت روی حضرت ابراهیم فن نظره نظرتم فن نجوم یه نگاه کرد به آسم بلا فاصله فقاله این نیستقی من مریضم این چی؟ این میخواست بزنه بوتا اینا سرویس کنه دیگه نجوم که نگاه کرد فهمید و وقت جشنشون رسیده اینا از شهر میرن بیرون منم که مریض شدم میمونم تو شهر من میمونم این بوتا <تصفيق> زرد همهشون ریز ریز کرد گنده شون کاری نداشت الا کبیرن لا تبرم گوش دو شون اینا اومد اول کوبر دهون بپرسید فکر کنم کار خود پدر سوختهش به این طبرنو دستش خب گفتن <تصفيق> جواب نمیدین جواب نمیدین سراغ کی رفتید از این بحث در تفسیر نجوم یعنی اهل بیت ستاره ستاره درخش بروج همینجا میگه پس نگاه کرد به آسمان اینجا میگه که روزه ابوالعبدالله بهش نشوند. خب مریض شد. یعنی انقدر این شدتی یعنی همین انکه ارزش شده. رباتمون داریم. حضرت زکریا دیده، حضرت آدم دیده، خیلیاشون. میگه حضرت برای مریض شد افتاد. در جای دیگه هم سخن دیگه براتون عرض کردم که هر آن چه که هر اجداد حضرت حسین علیه السلام انبیاء الاهی هرچی رو گردن گرفته بودن انجام نشده بود و ایشون همه رو به عرص بود انگار که بچه نماز غذای باباش پسر به عرص میبره و باید به خونه دین گردنشه دیگه آه؟ اسلام علیکی آبا رسه آدم صفحه دو. اسلام علیکی آبا مثلا تو بارسه نوهی چیه؟ یه و ن جیم گه نجاتش دادیم و اهل از چیمل کبل از این قران میگه پسرش بالاخره درسته نخال بود اما ج چشش تو آب دست دست و بازد سخته درسته آدم عوضی بود اما سخت حالا اگه پسره آره تو دریای خون غلط بزنه دست و بزنه و اون پسر اشبه اون نازخلغن و خلغن و من هم به رسول الله باشه چی تو ماجره ازت ابراهیم بچه شیشماش تشنه شده درسته باید منطقا هم خدا با موجوده نجاتش داده آب باید میمورده بچه شیشماش در گردنت مونده ابراهیم یه جا دیگه پسرشو بر سر ببرد نبورید و تلوول جبین به پشت برگرده سر بورید بازم نبورید یه جادی اینجا جا حضرت ابراهیمه اینجا قرآن میگه این نهازا لحو ول بلاه المبین عجب بلاه مبینی بود بالاخره اقدام به با از دست دادن بچه اما عبدالله به کربلاه که رسید دیدی تو ماجره نو گفت کربه عظیم اینجا گفت بلاء کرب بلاه به کربلا کر بلا که رسید فهموت عوضو بالله من الكربه ول بلاه یه جا ابراهیم شد پسرش جلش دست رو بازد جا نوه شد یه جا جای ابراهیم شد پسرش رو قربانگاه برد علی اکبرش رو جای اسماعیل یه جا جا, ابراهیم جا, اسماعی. جا, جا اسماعیل ابراهیمی که اسماعیل شش ماهه شش ماه که آبش نرساد از دنیا بره اون زندمون خب شش ماهه تقدیم کرد یه جا جا ابراهیمی که مریض شد علی ابن حسینش مریض شد عجب یه جا جا اسماعیل سرش بریده شد ما ازش داد مرید پیر مغانم زمن مرید پیر زمن شیخ چرا که بعد تو کردی و او به جا آورد <تصفيق> تو ابراهیم وعده کرده بودی فرزند قرن که او به جا آورد خب ماجر اون عجیبه اینها میدونسته نه عبد اون موعود وعده داده شده و قربانی الهی برای تون مفصل راجع به این صحبت کردم بزیگه نمیزون نشید کتاب ارمی نبی کتاب داوود نبی قلب من از مصیبت حسین پاره پاره شده شرحه شرحه شده همین ها هست و خداوند در کنار فراد در به ارتصابون در سرزمین سابون در زمین عراق کجای فراد؟ ترکیه بالاش؟ نه در سرزمین عراق همونچه که بختان نصبود. ذبیهی دارد همین الان تو شد همین الان نه مثلا یه توراتی من دارم هیچ دیگه نداره و این عفوا نیست خب خدمت شما بشم که اینا میدونستان مثلا این که از این یهودیان بود به تخت داش میرفت به کربلا که رسید وای نشتاد رد شد گفتن چرا گما تو کتابمون داریم یه فرزند پیغمبر اینجا کشته میشه من از نسل داوودم نمیخوام من باشم نایستاد سری گازش گرفت نام پیامبر رو به سراحت داشتن ببین من این تارا جایی نگفتم همین دیروز سر نماز به بچه ها تازه بداش کردم. <تصفح> خب این جدیده باز به اسم نام پدر نام مادر به اسم عمری واقع داشته براتون نشون میدم به اسم نام پدر نام مادر فرزند عبدالله فرزند آمنه از نسل اشمعیل از نفس اسم اینطور داشتن يعرفون نه قرآن میگه يعرفون ابنا جوری شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه امکان داره مثلا شما دنبال مرسه دنبال بچه‌ت تو 6 میلیارد 7 میلیارد 100 میلیارد جامعه قاطی می بچه تو بچه‌ت می خب من شما عرض بکنم قصه این چیه اینو من قضاوتی در موردش نمیکنم خب نظرتی دارم نمیخوام قضاوتی بکنم این که ببینید عزیزان برادران من اینا میدونست دو آمدن چیکار کردن گفتن ما میاییم با همان اعتقادات به نجوم من چند تو سآله قبلا قبلنم یه با تو محرم پرسیدم بردرمون انا شارکه گفتشون منو گفتون نماره گفتن چند تا سوال؟ اینا اجازه دادن امام حسن نماز بخونه نا تیر بارون کرد چطور اجازه دادن یه روز اضافه تر بنام چه منطقی؟ اما ما که من وقت میخوام میخوام عبادت کنم، باشه شما وقت داشته باشید یه روز بیشتر ۳ هزار نفر تعداد اوناست وسط بیابون همین شما رو اگه ما نماز شد تحتیل شد مثلا یا تحتیل نیم ساعت بعدش نرفته باشید اینجا یه شام بخوایم به شما بدیم فکر نه این فکر رو نکنید خب بیچاره ایم نه یا آبمندنی سوپر مارکت این بقل تو جیب چیزام هم بگیدین. اسنا مسنا پوم میان بیچاره این یه مهمون میاد یه دو روز اضافه ترمونه. سی هزار نفر وسط بیابون آب و نون اینا چی میشه ها بچش دستش اینا چی میشه نمیدونم چیکار میخوای بکنیم هزار خیلی ها بعد یعنی کاملا لجستیکی میخوام ببینم اون که اردو بردن اونایی که مثلا می میشه تمام اون کارو نه روز بجه بلاخره مسلمان هم میخواهد نماز بخونن بزن نماز بخونن نماز هم بعدا میشون اه فرداش چرا کار کردید پس؟ تیر میبارید روز سرشون نمیداشت نماز بخونن میگه جوری قرآن میخوندن زمزمه میکردن مناجات میکردن از خیمگاه هماموسی صدا کندوی زنبور اسل میمد صدای این آدم ها دره هم میده. دیدید بعضی موقعات بعضی هرم ها هم میره همینجور شبای قدر همینجوری به از موقع آدم میشنه میگه مثل صدای چندوی زنبور اصل و لونهی زنبور اصل بود بعد بینا وقت دادم آب بستن چرا چرا انقدر روز و بستن چرا اصلا خدمت شما ارز بکنم که تو این نقطه نگه داشتن گفت باید بری این سمت گفت من برم این سمت گفت نه دستور رسیده من شما رو دارم اینجا ابن زیاد با کی در ارتباط بود؟ سرجان سرجان کی بود؟ یک یهودی زاده مشاور مواویه بدن شد مشاور یزید او میگفت چی کار رو بکن یه دهی که بعد تنقبت نقاب داشتن اصلا نفهمدن اینو کی هست خودشون قایه میکردن اسرجت و الجمت و ها حالا من دیدم یه تحلیلی هست که مثلا میگه روی اسم نقاب زدن جنوب چون اسم روی مثلا پا نمیگذاره روی جنازار الان میخوام به لفظ جنازه راه استفاده کنم بگم آره پیکر انسان مثلا اینه اما اون چی معروفه تنقبت عرب و لسام داشتن درنش مثلا خاک نره همین سرباز آمریکایی میرفت عراقی همین خود سرباز عراقی چیز میندازم تنشون گرد و خاک نره نه این نقابه چشمشون هست خب عرب توی چیز رجز خونه خوش معرفی میکنه با افتخار اصلا رجز یعنی منم نمیشناسی انتن کرونی اگه نمیشناسید من رو فعن ابن الله حسن من پسر امام حسن معرفیم خوش معرفی میکرد. جور در نمیده آقا تو لی عربا نبود این کار تو لیویلشون نبود این کار یه چیز دیگه است اصرار بر بریده شدن سر شما موسیقی من قد تیر و زخم دارم هم یه دقیقی باید سر باید کارم جامع. نه من باید سر بوده بشه و اینکه سر بایده پشت بریده بشه آیه قرآن نگمه تلهول الجبین چرا باید قرآنی نشار کنم یه اسمایلو به صورت به جبین به خاک خوابون خب این داره پیچیزه تر میشه. بریم اون سال شست و یکی هجری آشورا بریم کربلا ببینیم یه نفر روزمی بوده تو آسامون چی میدیده خوبه میشه ده اکتبر سال 680 میلادی اکتبر میشه ماه دهم خب ما از سه روز قبلش بریم آشورا میشه دهم هم ده تو ما از هفتش بریم ببینیش خب این هم میذاریم این بالا میریم ماه و سرچ میکنیم ماه کجای آسمون قرار داره از شب هفتم به بعد نگاه کنید این ماه خب مون میبینید آه این ماه درسته؟ من میرم روز بعدش سرعتی نو میتونم برم ببرم بالا خب میرم روز بعدی ماه وارد صورت فلکی آبریز میشه دو نیم سه روز تو صورت فلکی آبریز ماه میمونه سه روز آب و بستن خب این از این. یه شعری شنیدید از مرحوم محتشم جای شما خالی من نایب و زیاره شما بودم قبر مطهر این شاعر اهل بیت در کاشم. همین کتیواهایی که ما داریم شعرای معروفون دیگه میگه زین تشنگان که به عیوق میرسد فریاد ال ز بیابان کربلا در اسطوره های اینا این بود که اگر شما تو بیابون گیر افتادی تشنه بودی به عیوق نگاه کن اگر عیوق دیدی تشنگی‌ت برطرف میشه کمک میکنه برام اول آورش شد اما در اوس در عوض باید به تشنگی بمیری ولو بعد 100 بی... سال بعد 50 سال باید به آتش بمیری شد چی شد میریم ببینیم عیوق کجا بوده اصلا میتونسته عیوق تو اون تایم تو اون روز باشه و من چی اون طرف باشی شما نبینیش ایوک کپلاه خب این ستاره بریم ببینیم کجاست لوکیشن اونم بچه ها بریم تقیق نگاه کنیم لوکیشن اونم گذاشتم من روی کربلاه میبینید آسیا غربی یعنی دقیقه ما رفتیم شبه ها شورا بریم ها شورا شد اینم ده هون. درست شد بریم اقعب نگاه کنید الله در وسط آسمان این این کپللا. این این از برم بالاته اون بالا دیده می شود. در تارک آسمان زین تشنگانی که به یو می رسد فریاد العتش ز بیابان کربلا یعنی با یه همچین اعتقاداتی به شهادت رسود امروز روز ما داره این جریانی اونا میراستار اون طرف هم. در عمل هم داری میبینیم کی بچه کشه کی از بچه انتقام میگیره تو نبایید حیله تو کتاب نبوت الولد که اینم دهه ها قبل از به دنیا آمدن پیامبر دوستان مسئله اینه که به دو دستان بریده از تحباس هم اشاره میشه اینا رفتن یه سری پیشگویی رو محقق کردن شما می‌دونید مثلا قراره یه موقعی تو این سالن مثلا یه نفر به یه بچه ظلم بکنه میای اینجا جلوشو بگیر دیگه یا <تحد> چون چقدر خوب میدونم قراره این ظلمی صورت بگیرم برم زودتر اینه شکار اطلاعاتی بیا فلانی قر اونجا بمگذاری کنه ما فهمیدیم سه روز دیگه آینده است سه روز دیگه آینده است برم جلوشو بگیرم یا نه مثل آدم معیوب بگیره خب اه پیشگویه دیگه انجام بشه نه آدم آقای این حرف رو میزنه اینا بیجن که بیان اونجا جلو بگیرن نجات بدن مادن محقق کردن. تو کتاب نوای تهلت میگه استخوان‌های سینه‌ی در زیر سوم اسبان شکسته خواهد شد محققش کردن حالا اگر تنقبت برای اسب بود یا تنقبت برای آدم میخواست بگیر اواظد نمایتو گودال نرسیده تو گودار که نمیتونه شما اسب تازه به کسی از تو گوبنچ تو وسط اون هیروبیر ببین که طرف وقت نذاشته برای انگشته رو دراوردن انگشتو بریده انقدر شیر تو شیر رو در بودن هزار نفر ریختن مگه چقدر غنیمت از دست هم میقاپیدن یه نفر انقدر حوصله وایستا اینا بعد دربیاریم بچینید ما میخوایم اسب تازیم بس اون جسافتکاری خودشون اون ذهن پلید و پلشت خودشون رو محقب اون روزی هم که من گفتم من نکات راجعه نجوم میدونم که اگه بگم مردم تحملش شنیدنشون ندارن این نمونه ها شد یکی دو تا شما گفتم خب بخششو این به این من نیست مثلا آو دانشم مثلا ما تو چه میدونم فیزیک مثلا اختر فیزیک نداریم نه اون که هست بله من علاقه دارم این نرم افزار شدن خودم علمی رسط میکنم اما اینکه او معتقد است به این کار او معتقد است به این کار اصلا این اصرار بر یک سری کار ها اصرار بر یک سری هست کار یک جاهایم هم برای که ما خط و گم کنه اومدن جعل کردن از از قبل میگم به اس پدر مادر می میشناختن رفتن سراغ پیامبر به شهادت برسونیش. پیامبر بچه شو بردی تو یه ق... خوکین خب کار میکنه. یه نفر ارور است. سلام علیکم بله. بیدم من بچه تو برم شیر بدم تو بیام. خدا فضی باد. جگرگوشش تو. حضرت آمینه هی. همسرش به شهادت رسونن حضرت عبداللهو. بسم. پدر رو بعد حضرت پیامبر اومد میگن که نه اون موقع می بود چون حج نمی ویروس های مختلف بود بچه کوچیک چیزیش نشه الان اینجوری میگن بچه رو میدادن آب هوای هوای مکهام خوب نبود برای بچه کوچیک میدادن میبردن این قبایل عرب ببرن تو بر بیابون مثلا اونجا شمال بوده مثلا خیلی مثلا هواش چیز بود ببرن اونجا بعد ببرن فاصله سنی پیامبر ما با حضرت حمزه چون فرزند عبدالمطلب فرزند شیخ عشیرست شش ماچه رو اونو نبردن بعد قایمش کردن هفهش سال نگشت می‌داره، بعد جاشو پیدا میکنن پیدا میکنن اینجا اون جهلست نگاه کن حضیث شق و صدر. شیما دختر حلیمه می‌بینه، یه همبازی پیامبر بوده میگه یهودی دیدم که دو نفر اومدن نشستن میخواستن سینه پیانبرو گفتن با چاقم آقا میخواستن این جیغودات میکنه میان فرار میکنن. تو این فیلمه کای ماجدی رو نشون میده دیگه خوب بعد اومدن سری حدیث جل کردن آ اینو دوتا فرشته بودن هر چند وقت خیال میودن پیامبر رو قلبش خارج میکردن شستشو میدادن دوباره میشن سر جاش دستم میکشتن خو خوب, خوب می شد <تصفح> این چارف اینو جایی که خوششون خواستن گم کنه یا مثلا وقتی سعد بن رو کشتن سر بن مخالف اون سیستم بود حالا من اون بخشو به خاطر بحث وحدت نمیتونم باز کنم. یه اشاراتی دیگه کردم تو مسجد ماه برید گوش بینیدون سه جلسه رو، نقش یهود در تولید فکر صدر اسلام اصلا با بندگون خدا عرب جالی چیمیز این چیزا چیه کی به یاد میداد یکی از همون کسایی که بعدا به حکومت رسید در کتب یهود منجیه <laughs> منجیه لقبی که بهش دادن منجیه <تصفيق> هست هست اسمش هست خب بعد سعد بن عباده داشت بازی رو خراب میکرد اونم تازه طرفتر از تعلی نبوده. گفت چرا شما من تو صقیفه. تا این کار کرد چند وقت بعد جنازش بیرونه مدینه پیدا شد رو زده بودن داداش خفش میکردی میبودی سکته پوزش پوزش قانون نبود که ببین گردنش روزن کلش بروندن گفتن جن گشتش اینا هر جا خواستن رد و پای خوشون رو قایم کنن چی؟ آره بعضن مالا نمیتونم توضیح بدم اما سرفصل رو بگیرید بعضا برای ما یه سری چیزا هم گفتن که تو خوشت میاد تو خوشایند شنیدنش بر تو اما تو رو از حقیقت دور میکنه بعض از این چیزها هم برخی از این خونا خراب کردن چیز رو جل کردن ساختن خب بعد نشست تو ذهن مردم مردم حالا نمیتونی بهش بگین این نیست فهم کنم با اصل روزه موزن مشکل داری این حرفا چی چیه این حرفا چیه حتی یه چیز عجیب به شما بگم در کتاب نبایید حیلت این هست که شیش میدهیم ما عبری و فارسی شیش و شیش میگن همین عدد شیشا شیکا, شیکا. یا شیعقا. شش نفر مشتاق مثلا اینجوری معنی کنه بعد میری جلوتر یه اشاره ای داره بستگی داره که شما این حرفو چهجوری چون چاپ قدیمی نوشته قدیم نمیدونی مثلا د یا ر ما گیر می مثلا این س یا ش مثلا ها م یا ب مثلا ب یا به. تو زبان ما مثلا ب یا پ بعد نوشته بعد خط نوشته قدیمی شده پاک شده یه اشاره به یه عروسی عروسی کجا بود روز عاشورا تون هیرویر با انا شب شیشون بر عزت قاسم برام دارن عروسی میگیرن عزت قاسم به بلوغ نرسیده بوده تازه 16 ساله نشده بعد اون نیرو بعد مثلا فیلم از هیئت دیدم دارن همین لخت هم مثلا دارن سمز از اینا رو شروع میکنن. دست زدن کل کشیدن گل میپاشن شکلات میپاشن ای. اینا جالیات ها یه خورده خطوبه توی شرط جنگی <تصفيق> اونی که داماد کربلا بود پسر بزرگی امام حسن بود حسن موسننا تو مکم عقد کردن تا همین که زنده بود مود هرچی دادن اینجاز زخمی هست که زنده مود قصتش هم براتون گفته اختلافیه بعضی ها قبولش دادن بعضی قبولش ندارن حالا از نظر من میگم بعدش زارن توبه کرده دیگه پشیمون شد اینطوری خب نخیر حسن مصنا زنده مون <تصفح> چون دایش تو سپاه اون طرف وقتی رفتن تو دارالحرب اون خیمه که پیکر متحرمی بودن پیکر متحرمی بودن اونجا اینا ریختن اونجا سرار جدا کنن بران که سر ببرن بر سر جایزه گذاشتن اون طرف وقتی ریسته این میخواستن سر اون داره علائم حیاتی داره این اومد واسطش گفت من با فلانی آشنام با بهمانی آشنام و به واقعا واقعا بود از گندای عشیرشون بود گفتن شعر نشه گفت من اینو به خاطر مامد ببخشید بخشان آوردش کوفه آوردش کوفه درمانش کرد و زنده موند حالا مثلا یه پنداش یه دست نداشت چه جوریو مریضم بود بعد ها نسبت به وجوهاتی که از امیرالمومنینس موقوفه ها مدیر وقف امیرالمومنین بعدش به امام حسن ردی او گفت به امام سجاد گفت من پسر پسر بزرگم تو پسر پسر ای موقوفه بعد به من برس. خیلی عارفه بری تا لبه شهادتش عیده که ارولا بودن که دیگه نداریم بالاتر از اون. بعد اینجوری بیای بعد جلوی امام معصوم بیسی خیلی حرفای بعدی زد به امام سجد. بعدش پشیمون شد البته امام با اخلاق حسنه او رو آرومش کرد خب؟ بعدها پسر حجاج ابن یوسف که ادعای خلافت کرد چون فقط خلیفه قریشی میتونست باشه رفت سراغ این و برای این بیعت گرفت من قیام میکنم به اسم تو خب تاریخ و منطقی باید خوند یه چیزای مثلا یه سری میاد زده میشه درست سالا ما انشالله قصد داریم تو این اهل وید میدیوی این کانال احلی وید میدیوی داریم برنامه حالا اینترنتی درست بکنیم کارشناس درجه یک خبره هم تاریخی برده بریم مقتل شناس برده بریم یاد بگی بگی آقا این سند شینه این اینجوریه تاریخو باید عین کاراگاه بری توش بشینی پجوهش کنی پیش انگاره نداشته باشی که روز اثر بگذاره من همیشه برام سوال میگمت چرا اینا وقت دادن بچگی میفکرام سوالو تو ذهنم تا پیداش کردم مثلا اینجوریه دیگه خب حالا القرز این که این جریان حسینی و یزیدی بهتر بگیم جریان حسینی و اون طرف صهیونیستی خب در چر بلا بی طرفان بی تاریخ همان است حسینی و یزیدی اینا ابزار دارن ابزار رسانه دارن تخریب میکنن دروغ میگن تهمت میزنن تمسخر میکنن اصلا ها امتحان ماست که من بازم باورم میشم حضرت علی مسجد چیکار میکرد ها دعوای ما حسین یعزی سر یه زنی بوده مینید <تصفيق> میبینید چرتوپرتایی رو میارن بالا برای اینکه شما رو تقلیل بدن قصه ها مگه همین ناصرالدین شاه الان دست نگرفتن قفلی زدن ناصرالدین شاه اثبات کنن قتل ناصرالدین شاه اشغالانه بوده یه <تصفيق> چند تا سریال ساختن چرا چون میخوان دست جریان بابی بهائی رو کوتاه کنن ناصرالدین شاه یک از که کرد با این بابی ها برخورد کرد با باب کرد به عالم اخراج تابت انتقام میرفتن اون انتقام یاد حالا ما خواهد کنه نه عاشق بود مزخرفاتی هم ساختن حیران و میران و ما بعد بفهمیم که وقتی مولای ما میاد میخواد بسات اینا رو برمیچینی چی رو داره برمیچینه مردم اصلا متوجه حجم ظلم و کاری اینا نیستن یه بخشیش که از فطرت خارج شدیم یه دمون ما از تنظیمات کارخونه خارج شدیم قسیل قلب شدیم میگه نه همین بود ما رو دق بده یه اصلا خبر نداریم چه جنایت شده میشه یه سری زندان پیدا کردن مخفی حال چه ماجرای سوریه رو میگن تمام هم دید جلی در اومد دونه دونش خب اما اینا که واقعی بود افسر اطلاعاتی مصاحبه کرد من همونو توییت زدم بچه‌ها اون کلیپ اونم بذارن خدمت شما ارز بکنم که میگه که ما دونجا زندانای پیدا کردیم دیدیم توش یه سری آدم و نمیدونیم تو کجایی کی؟ گم من چه بلا هاست انسان هایی داره میافته میاد که ماها روح من خبره داره. یه کسی سی سال 40 سال عمرش و یه کنج زندانی داره شکنجه میشه آ... شما فکر کردین اینا مثلا رو آدم ها آزماش کاری که در جنگ خودمون صدام ملعون و بعثی به پشتبانه همین آلمان ها انجام دادن مواد شیمیایی رو این بچه های ما بعد این بچه های بر برای درمان میرفتن کجا؟ همون آلمان یه پرونده میرفت برای کارخونه شیمیایی. که ببین اون کاری که میخواستی بکنی شده یا نشده با این دوز این آدم در این دوز موادشی می قرار گرفته انقدر روز انقدر مثلا فیلان ماسکشین بوده نداشته داشته چفی بسید خلاصه اینجور تا اینجوری هر انداره خس خس میکنه سینش چه ظلمها داره انجام میشه که ما خبر نداریم برای یه مشت شیطانی خود شیطانه تجلی افراد زمام زمان سلو